طاو من الولاده الثانيه العظيم ان شاء الله وبارك لي الحمد لله وانفعه وانفعه الحمد لله وعلى تبار امروز ندارم درآش و این موضوع از دو دکتر شیخ محمد صنایم و دکتر شسترابین جوادی که رسم کردند و ادیله دکتران رو فهمشند. پس درون ادیله ها ادیله هر کدوم از اندیشه میشه. رو و رو دارم در حال مطلب رو این از شیور که از آنها تلیمار از شما از همه که همان با نمکات دانیم دانمکات دانیم بودشون که نظر با کسیم دانیم که مشاکت نکونا کنگان دادیش و این اما من هلی بانت خوشون یا مشاکت نکونا کنگان شما هلی امرا من یا با با این يا الله او بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه این یک دعای خیلی مهمی هست ارین الحق حق هم که حق را همونطور که حق هست ببینیم این یک توفیق میخواد توفیق خیلی بالا و توفیق دیگه هم هست که ورزق نتباه حالا که حق دیریم توفیق طبعیت داشته باشیم این یک دعایی هست که خصوصا برای ما که طالب علم هستیم و طالب علم دایی ضروری هست و الا از اون ور بل الانسان علا نفسی ولو القام معاذیره انسان اگه در بچار نفس بشه این خداوند ما را پناه بده از بچار شدن به نفس ولو القام معاذیره در دلیل تراشی معاذیر شغی منتحل جموع هست میشه دلال دلیل تراشی بکنه انسان بودا بنده خطاب به خودم یعنی میخوام که این توفیق خداوند به ما بده و تو مسئله عرش بنده موضم را همینجا شفاف میگم و بعد همینطور که جناب آی سید فرمودن بخش صحبت هم یعنی صحبت دو قسمت هست در قسمت اول یعنی قسمت های بخش من بحث های من این است در یک قسمت آیاتی که در رابطه با عرش در قرآن هست رو آیات بحث می‌کنم. یعنی یه بحثی دارم رو اونها و عدلهی و استنباطاتی بر اینکه اونها به معنی م... به چه معنی هست در اون آیه در قسمت دیگه ای از بحثم در رابطه با یک اشکال منهجی که من فکر میکنم که که سبب شده هم مشکل عجل و هم خیلی از مشکلاتی دیگه در سلفیت به وجود بیاد به اون میپرداد مثلای زبان قرآن زبان قرآن و الان این سلفیت که دارم بیاند سلفیت دو رکمه سلفیت اصولی و سلفیت تندرو سلفیت اصولی همون چیزیست که تمام علماء در طول تاریخ هر من منهاجش قرآن و سنت بوده نه فلسفه و نه افکار دیگران این سلفیه و توجه هم داشته که که به حدیث که استناد می حدیثش باشه به حدیث ضعیف استناد نکنه و دوم اینکه محورش قرآن و سنت باشه این سلفیه و این سلفیت تندرو من اون رو میخوام نقد بکنم یه جا مشکل ارش پیش میاد یه جا مشکل عدم مجاز و اینا پیش میاد یه جا مشکل نفتی فقه مقصد مقصدی پیش میاد یه جا مشکل فرقی ناجیه پیش میاد همه اینها بنده بر میگردارن به مسئله زبان قرآن و اون را توضیح خواهم داد که فکر میکنم مشکلات زیادی حل خواهد شد و موضوع هم در مسئله هم اینه که بین سلف و خلف تو این مسئله دعوای زیادی نیست موضوع هم دارم هم خیلی شفاف سری بگم دروایی نیست نه اینکه اختلاف نیست اختلاف هست اشائره و معتزله قائل به تعویل هستن و عرش را تعویل میکنن مقام قدرت میدونن ید را قدرت میدونن اینها تعویل میکنن سلف تعویل نمیکنه منتها اختلاف به این حدت نیست اختلاف هست حدت نیست چرا نیست؟ چونکه سلف هم قائل به اینه که بلا کیفیه کمایلی قبع جلاله دنبالش اینطوری میگن میگن یده اما کیفیت مجهول کمایلی قبع جلاله خب که کیفیتش مجهوله و جسمانی نیست مشکل مشکل اشائره و معتظله و اونا تو اینه و خلف تو اینه که میگن جسمیت برای خدا پیشنه رو با جسمیت دوایی شدیداره اینم موضع بنده هست که خیلی شخصاب بنده که الحمد لله الذي على العرش استوى للجبروت والكبرياء والعظمة الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الذي عرج للسماوات العلا فكلم الله العلي العظيم دون الحجاب فوق السماوات السبع وعلى آله وأصحابه أمسين أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد محور بحثمون استوایی الله جل بر برعرش هست از قدیم از قرن دوم به بعد این بحث پیش اومد بین علمایی که رهروه راه تابعین والذین تبعوهم به احسان علمایی که رهروه راه تابعین و صحابه بودن و علمای دیگر که پیروه فلسفه یونان و منطق یونان بودن ما دیدگاه مون رو در بحث اصما و صفات. دیدگاه قرآنی، نظر لغوی، دلیل از قرآن و سنت و این مبحث قایی موجود شبهاتی از عقل، پیرامون این مطلب، اونهایی که استنادشون به عقل هست در استنبات نصوص اون عقلی که در تضاد با فهم، سلف امت بوده قرار شد به صراحت ما بگیم این موضع ما هست فقط اون چیزی که مد نظرمون هست سلف یک قل داره اونم این که الله بالای عرشه بالای آسمون هفتم نصوص قرآن میگن سریح سنتم سریح میمونه طرف مقابل خلف کدوم خلف مد نظره خلف فلاتفه اطباع نسینا و عرزو. یا خلاف المعتزله ازبوعی واصل ابن عتو و عبد الجبار و عبد معتزلی یا اصحاب ابو الحسن اشعری شاگرد جبائی یا اصحاب ابو الحسن ماوردی یا اصحاب محمد بن سعید کلال كالكولاب. کلکلابیه یا کرامیه و, و همچنین فرقه های دیگری که از خلف بودند چون موضع هر کدام از اینها فرق میکنه متفاوته در دل طریق استدلال منهج استدلال اشاعره خیلی فرق میکنم با معتزله چون خلاف یک فرقی نیست که ما باشون بحث بخوام بکنیم یک نظر ندارن متفق نظر نیستن اشاعره هفت صفت ثابت میکنن معتزله هیچ صفتی ثابت نمی‌کنن برای خدا ولی فلاسفه بالاتر از اینها اصلا وجود خدا بر شده یک وجود مطلق هست باید مشخص بشه که حالا ما هرچند که در بحث اشاره خواهیم کرد یا خداوند توحید بده کیم موزشو. موزشو. موزش این مطالب مشخص بشه و اگر شیخ موضوعش رو مشخص بکنن اگر موضوعش چون من اینه که ثواب کمای جلال الله آیا قائل این هستن که به معنای استولا هست در آیه صراحتن بگن به معنای استولا است ما بحث شروع بکنیم به این معنا آیه بافن دلیل هست از قرآن از سنت از لغت عرب آیا صحابهش فهمیدن قول از سلف داریم نداریم ما من منهجی هست اینو امیدوارم که در بحث این مسائل مشخص بشه تا اینکه لحد تحديد المحل للنقط مش النظام مش اساس بش تمام يعني يعني الخط الجديد هذا اللي ااا سلام من تیم نمایندگی اما آموخته بودیم نمایندگی شما به شما می‌رسد این دوره شما این دوره تلاش رو و سن سناتون در زمینه کشور شهر و بومی تجاری و دنیای علمی سلام شادباش در عهدی بود در این علاقه شما تجاری و شایان برای شما عالی بود می‌دونید سازمان تجاری حالا هر دو منظور هر دو معنا بیم ورود به علت اذیت رو یعنی مشخص بکنه دیوار مشخص نکره تحقیقاتی که بین سلف و خلاف اسمون فرق هست فرق هست اما تفاوت نظر هست بین سلف و خلاف تفاوت نظر هست اما هدهتی نیست من کل موضعی که دارم شما با سلفی دارم خلال خلاصه شد نه خل... بله سلف که دویه؟ من از چی میخوام دفاع بکنم من از یه چیز میخوام دفاع بکنم اون این که هر دو نظر نظر تقصیری اجتهادی هستن و نه در سلف اون کد خاطئیت داریم خاطئیت دلیلی یعنی که, سل... که خلاف بشه خارج از منهج صحابه و مبتدی من نه اون که خاطئیت در قسمت اشاره هست و معتزله که اون همه اصرار بوده بله موضوع منتقد از این میخوام دفاع بکنم کیا باید این درکات قلی بیخودی شرابش بی پری این موضوعشون مقدمات ما شما رو شما چی متن پیدا کرد؟ تا textColor کرامیه کلابیه موزه دو تا موزه هست دو تا موزه زن موزه ای که جسمیت را برای خدا چیزهای صفات دال بر مشعر بر جسمیت که در قرانامه‌ها همه را می کنند این هر هم فلسفه‌ای همین کار میکنن هم اشاعره هم معتزله و غیر از همه همین کار می کنند صفات مشربه بر جسمیت همه تعویل می کنند این یک نظریه که من میگم تو این مساله دو تا نظر هست یکی که تعویل میکنه صفات مشربه بر جسمیت که عموم خلفتا همشون هم خلفت توی قسمت متفقن تا اینجا بعد طالعام که تعویل نمی‌کنه نه مرات هر والا اگر اگر اگر سوال سوال ها سیاستم معنی علو ده چه تعبیرش رو تعبیر می‌کنه درست بیشتر شاید به نظر بیاد یعنی عیش های ادله اونایی که تعویل می‌کنن قوی‌تر بدونم منتها فعلا اون چیزی که موضع دارم نسبت بهش اینه که هر دو نظر نظر تفسیری اجتهادی نه شما خب حالا بله. من مورد نمیخوام نمی‌خوام بگم که الا بلا اون نظر باطله. اون قد در نظر اشعاری نیست. اون طرف مفسری مثل آلوسی هم حق به صوفیا میرن به ها. ال مناره می توره شما هم در ما این کتاب من در این یه مقدار وقت میخوام که حرف پایه این میخوام اینجا بزنم اون این که خلاصیت غیر اصولی که بعد خیلی مشکلاتم پیش میاد تو یک مدنه مشکل داره من معتقلن مشکل داره که به اینجا ها منجر میشه اونم در شنافت فهم زبان قرآن زبان یک ما موضوع بله موضوع نشیم نه فقط از جناب شیفت اصنی الان فقط طرف مقابل آیا وقتی که میگم سدفیت غیر اصولی تنرو میخان رد برش بدن منظورش منه یعنی فقط این موضوع شوشت هست بگمتون چند دور تکرار سه چهار بار تکرار کرده آیا منظور از سدفیتون الان طرف مناظره منه آیا این طرفی که میخان مناظره بکنن رد برش بدن اون سلفی غیر اصولی تونرو کیه جوهریه اصول فتح منظور منه خیر بفروض ایشالفیاتاتون رو می‌مری میخوام دفاع بکنم راستواد من بده من خودم در اصلفیات غیر من بنا رو دارم راست مناظره بین دو طرفه خیلی خوب من انتظارو ندارم بعد در اگه اینجا واش مناظره بکنید اگه من تورو نیستم پس من تورو رو نیارید نه نه چون, چون چندین بار گفتم ترفیه اصولی غیره مردران میخوام حالا اجازه برید من تا مبنات هر فرم ارزه رو بگم یا کنید. زبان چطور چیزیه همه ماها تو این جا مشکل دارم زبان چیه زبان یک چیز خیلی ضعیفیت ما به زرق زبان تلجوه نداریم چرا چیزی به اسم فیلم درست شده زبان بیان ناقص بوده و رسایش کم بوده رفتن فیلم درست کردن نمایش درست کردن تئاتر رو درست کردن تا بیشتر برسنه این یک چرا علوم تجربی همشون زبان شده ریاضیات چون ریاضیات دکتش بیشتر و زبان متعارف ضعف داره دو سه چرا استعاره مجاز و این توسط داخل زبانش عراق پیدا شده ۲ شهرا میخواستن از تخیل و احساسات خودشون بگن این زبان من متعارف ناقص میدیدن به همین خاطر دست دارن به کلمه‌سازی، مجازسازی، استعاره‌سازی، سازی که سازی، استعار سازی. چرا در هر کشوری فرهنگستان ها وجود داره؟ که وقتی میخوام که کتوبی رو ترجمه بکنن، او فرهنگستان می‌رن معادل‌سازی می‌کنن، می‌رن ادبیات ارتقا می‌بخشن، این کار می‌کنن. چون زبان ناقصه، ما ضربه داره می‌خوریم از همین‌جا که به زبان وقف نداریم. چهار پنج عرض میشه که چرا در زبان آلمان در زبان آلمانی وقتی کتی کتاب‌های های و هگل نمی‌تونه بخونه و بفهمه، فیلسوف بزرگی بودن چون که زبان آلمانی به رشد نرسیده بود. اما بعد از این به تا فیلسوف 300 سال اساسی رو دانشگاه و اونها هر طور اینا رو بیان کردن در زبان آلمانی ارتقا پیدا کرد. وقتی که نیچه و شوپنهاور آمد، زبان به چون ارتقای رفیده بود که کتاب اینا رو همهی ای عوام میتونن بخونن. زبان چون رشد کرده بود و چیزای چرا هر کتاب شرح داره روی رو کتاب ها شرح تفسیر نمیشته میشه چون کتاب چون که بیان ضعیفه، شرح هسته میجا قیدا میشه یه هفت هشت چرا معلم وجود داره معلم مدرسه چرا هست چون که زبان رویایی نداره به اون کافی که مطلب و کامل بودن از روی کتاب بفهمند به این خاطر استاد هر کتابی استاد کناره شه ما به این توجه نداریم که زبان ناکسه این اه هفت اه ارض میشه که و مسائل دیگه‌ای که توضیحات قویتر و بیشتر میخواد که میخواهم با سرعت از اینا بگذرم حالا این زبان بشر هست این زبان هست حالا بیایم که خداوند متعال چه رسالت میخواد رو زبان عرب حمل بکنه خداوند متعال چه رسالت مهم نیخواد رو زبان بشر نمیخواد نب... دیگه حالا دیگه این ضعف زبان چقدر بیشتر میشه من با اون سلفیتی که حالا نه سلفیت همه این ما ظاهرگرایی اونی که نمیخوایم تعویل بکنیم و مجاز بیاریم و استعاره بگیریم و اشارات بگیریم و اینا من با این میخوام حمله بکنم به این یعنی اینا رد بکنم و با سر نقد بکنم نقد بکنم و رد بکنم چون نقد یعنی نه نقد نه یعنی رد این رو میخوام شفاف بکنم که ما خیلی گیریم تمام مشکلی که واقعه مقتدی پیش میاد نوشی از همین جاست میگن این آقا نسخ قرآن نسخ قرآن هدرو نسخ کجاست وقتی که خداوند مثلا حالا خیلی خوب نظام ما این باید باش کنار بیاد که زبان قرآن که زبانی که خدا باش صحبت کرده در قسمت های دیگه این میکنم خیلی وقت نگیرم. این چند دقیقه دیگه باز با می‌خوام. خب. حالا من میام به که فر این وضعیت زبان هست به طور کلی. کل بشریت این و زبان این نفس زبان رو پذیرفته. خیلی بدیهی هست دراشون. حالا حالا خداوند متعال چه رسالت با نزول قرآن چه رسالتی می‌خواد بر عهده ای این زبان ناقص بذاره؟ حالا که این این دیگه خیلی ناقص تر میشه. رسالت من مثال می فقط رضیم مثال می درم که زیاده تودیه نباشه شما فرض کنید برای تقریب بزن فرض کنید یه پادشاهی شفت سال حکومت داری کرده باشه حکومت داری جنگ تبادل با کشورها حل مشکلات حل فقر بزرار ارتش سپا همه اینجور چیزها کل حکومت, حکومت شفت سال بعد از بعدا سال بتصل من منو میخوام در یه روستایی برم زندگی بکنم دیگه یعنی میخوام استراحت بکنم دیگه خستم حکومت رو به وزرا میسپارم فرض به چین چه پادشاهی در کشور چین بوده مثلا خب میگن خب وزرا میگن میگن خیلی خب تو میری برو اما ما یه خواهش از در آقا چه خواهشی ما تو میری اونجا پادشاه آینده رو تو پرورش بده تربیت بکن حکومت داری می خب من خیلی من میرم ولی من تو دهات میخوام زندگی بگم تو روستا اونجا نه ارتش من چطوری یعنی هیچ چیز از حکومت داری اونجا نیست که من بهش بگم ای ارتشه با ارتش ای کار کن این کشور مخالفه با کشور مخالف اینطور با ای این این تحقی با تحقیق کار کن هیچ چیز نیست و من یه چیزه یک انسان خیلی باووشی به من بدید که من برم اونجا پرورشش بدم من خیلی بعد به اون آدام میگم میگه حالا بیا تو اینجا من هر چیزی میگم جملات من از حفظ بکن من بهت میگم مثلا دست تو اینطور بشور ولی معممای حکومت داری رو دارم حل میکنم من بهت میگم سیمو اینطور بکن ولی وقتی که اینطور دارم, دارم میگم دارم میگم که در اختلافات بین الدولی ال... دو... چی کار باید بکنی من اینو من دارم لیوان نشانت میدم تو دریازش بفهمی این چیزی است که ما به فراموش کردیم و تمام مناظرات ما از همینجا شروع شده, شده. من لیوان آب لیوان نشانت میدم تو فهم دریا بخونی از آن. میان خیلی خوب حالا تمام مسئله همینجاست که خداوند با بلال داره صحبت میکنه با محمد با قریش مشکلات قریش رو داره حل میکنه اما جواب مثال اروپا رو داره میده. به خاطب بن یبی داره خطاب میکنه و جواب اینشتین و راسل و مارتو نداره میگه. این چیزیست که من فکر می‌کنم، بهش خیلی تبدو شروع و به نیاز به همین اون تأکید روش هست و حل مشکل ما هم همین میشه و الا ما باید بجنگیم توی که سطح مقصد پیان باید گفتیم پیاز نفارد پردیم به مقصد نیا حالا من جوراب هم میده بیام یا نیام اونجا باید دوابو بکنیم سالها امیدوارم که در آینده بس بسیارم اینو محترکتر بیم بکنم عبدال خدا دلیل در فقط شما ضعیف است. ضعیفیه و خداوند خیلی دستاوردهای بیشتری در نظر. من رو به من بحثم اینه. قوی‌ترین دلیل تو اونجا 23 تا دلیل دارم تو بحث عرض اونا که ساحت دارم داره منطق طبیعی ترین اینه در به لسان عربی مبین هست رسولم علیه الصلاه والسلام به زبان عربی فرستاده شده مقاتبینم از صحابه رسول الله علیه الصلاه والسلام اهل تساهت لغت عربی بودند انسان های دانا به مقاصد لغوی فرمایشات قران آگاه مطلع با درایت اوصافی که در اونها بوده و اون کسانی که خداوند مدحشون کرده در قرآن حالا مدحا و ها زیاده و فرمایشات خداوند از اینکه رهرو راه اونها باشیم و الذین تبعوهم با احسان با نیکی از اونها پیروی بکنیم فهم شيء فألم ذي من يشاقط الرسول من بعد ما تبين الله الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كدرحينين آيين وزيدهم آيين المؤمنين صحابي رسول الله بدا فهل يحرق روانهاو من الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, المؤمنين, المؤمنين نغل إن تولى ونصره جهن بالساعة مصير مثال الخيلة هذه أهميات التي مباد قرآن خیلی واضحه به سبب سوار میکنه که این جو در قرآن کاملیه قدمان میبینی الرحمان و عرش السوا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السوا على الأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عماد ترونها ثم السوا على الأرض. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم السوا على الأرض. الرحمن فتالبه خبير الرحمن فتالبه خبير خداوند صاحب خبرت و درایت از ذات خودش کسی نمیشه درباره خداوند تزاود بکنه حالا در ضمن بحث ان شاء الله قواعد کلی سلام در بحث مصوبات اشاره قایم کرد کسی نمیشه درباره خداوند قضاوت بکنه تعیین تکلیف بکنه و بخواد حرفی رو به ما بیاره اون چیزی که مصدر رجوع هست اون چیزی که تحاکم بهش هست قران خداوند کلامی که بر رسول الله الله علیه و سلم بحث کرده به از روش های فهم القرآن فهم لغت القرآن فهم معانی القرآن تفسیر قرآن و قرآن ما تفسیر قرآن زیاد داریم تفسیر با فهم با آیات دیگر از قرآن داریم تفسیر قرآن و قرآن مثل تفسیر از والبیان امون میشن تفسیر قرآن به حدیث داریم تفسیر به جلیل تبری تفسیر به آثار صحابه و تفسیرهای لغوی و رعی تفسیر زیاده ما نداریم. اون چیزی که اگر ما نظرمون هست در بحث السلف. سلف، سلف اینو میگه، یه قرآن بهتن راه حل برای فهمش، درکش، خود قرآن اولین مطلب و خود قرآن ببینیم کلمه استفا به چه معنی در قرآن اومده ما شما نگاه بکنید غیر افتی قضیه استفا که ما داریم استفا به خود خداوند، بند، به غیر خدا اومده در قرآن فا اذا استویت انت و من معک على الفلک، بحث نوح. وقتی که تو سواره یا برقرار برقرار شدی قرار گرفتی بر روی کشتی یا خدا در قرآن میگه لتسوع علی ظهره استوا یعنی بالا رفتن شما وقتی که بالای هیون قرار گرفتید این کلبه استوا هست وقتی که با علامت تعدی میشه هرچند که استوا در لغت معانی متعددی داره هیچ وقت تلف نمیگم یک معنامیات میگن در هر سیاقی در هر جمله یک معنای داره مثلا معنای لغوی استوا مثلا به طور مطلق وقتی که بیاد به تمام و کمال میاد، به طور مطلق بدون هیچ حرفی و لما بلغه شده و سوا وقتی کامل شد معنی کمال و تمام میاد. اما به طور مقید متعدی حرف الاب و حرف علا فرق میکنه مثلا اگر بباب مقروم باشه مثلا بگیم مثلا سوا الماء و ترازو داشته باشیم چوب و نمیدونم آب با هم مساوی شده یعنی چی؟ استواب معنی مصاوی بودن یا مقرون به علا باشه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء استوى یعنی قصد اینجا علی قصد میان اما اگر مقرون به علا باشه همونطور که ما قبلا داشتیم در آیه قبل لسه تتبعوا على ظهور اگر با حرف علا بیاد به اجماع لغوی ها اون چیزی که ابن عربی و سعلا و دیگران اثران بغت میگن اینجا وقتی که استواب معنای استوا حرف علا متحد بشه اینجا بمعنى السعود الصعود ولا ركض؟ إيه معناه الغبي شاهد بأن هذا، إمام حافظ ابن حجر وقد نقل البغوي عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن على أن معنى استوى على العرش ارتفع، وقال أبو عبيه والفراء وغيرهما بينحوه. كثاني كلام مقارب عن كثاني كهذا قط أكثر المفسرين. قفت إجماع ده ماذا خلاف؟ أم, أم أكثر المفسرين؟ بله در نزد سلام هیچ اختلافی نیست که سواب معنی علو و ارتفاع در رحمان و عرش سواب چون با حرف علا دی. اما دیگران از اونهایی که مسلک خلافی را گرفتن مثل زمخشری یا رازی قائل این هستن که اینجا این سواب معنای قهر و غلبه و نمیدونم قدرت و یا به معنی استولا و دیگر میاد که انشالله به وقتش بحثش خواهیم کرد این بحث رو روشخ کردن گفتن که سلف عنایت ندارم به علم لغت خیر ما میگیم لغت قرآن به زبان نازل شده شده باید بهش بفهمدیم و هیچ راه حلی که فهم و شناخت مداخل و مخارج لغت عربی جاهای استنادشو ما تا وقتی که ندونیم قواعد لغت عرب ندونیم اشعار عرب و ابیات شاعران رو ندونیم نمیتونی فهم درستی از قرآن داشته ما باید مطلع به فهم باشیم متلع به لغت اونها باشی همونطور که علامه لغت میگن میگن کسی بعد از خرنوبر دیگه حجت نیستن لغت الا ما شاف چرا چون میگن لغت به تحریف کشانده شده پس مهم اون، اون لغتی که ما بهش استناد میکنیم لغت فسیح از فساحت و دلیل از لغت عرب داشته باشیم. نه اینکه یه چیزی داستانترایی در ذهن خودمون داشته باشیم بگیم که حالا تحلیلش بکنیم بیایم نه چون آلا اونجا استوا مثلا بر فرض حرف واو ماده یا حرف الو اومده معنای خاطیره که پس دیگر جهان اینطوری میشه خیر در لغت عربی این چیزی جایگاهی نداره اگر هست تحلیل بفرمایید از لغت عرب سا تحلیلش بکنیم ببین که از لغت‌هایی ها گفته استواب وقتی حرف علا بیاد معنای استولام میاد. احتمالش از قرآنی که دلیلش ما دوست آیات قرآن هست و از دلیل بعد. بلغه کولا رفتن و قرار گرفتن یانه اینو شیخ تا خب تا اینجا چون که فرمودن خب دلیلشون دو تا کلمه بود بالا ثر چیزی که من با جواب بدم خیلی شرا چیز که چیزی که من با جواب دو تا کلمه بود. یکی اینکهشون میگفت استبا با الان وقتی بیاد حقیقت در بالاخره در معنی حقیقیش در بالا قرار گرفتن و حالا من به این جواب میدم جوابش یک کلمه هست نیا یه حرف حالا من اون قدم تا دروغات دو اونجوری ندارم که بخوام بگم که با علا بیاد باز حقیقت تو چیزی دیگه باشه نمی‌دونم. فرض میگیریم که این قاعده قطعی هست با فرض قطعیت این قاعده من پاسخ می‌دم. پاسخش اینه که درسته استواب با علا در حقیقت در اون نشستن خب حالا استواب با اله استواب با اله ادامت حقیقت در غیر این معنی هست دیگه اونجا نیاز, نیاز نیست که مجاز باشه تا معنیش چیزی دیگه بشه اونجا حقیقت در غیر نشستن هست یکی حالا اینجا که با علاحت اینجا که با علاحت و حقیقت میشه تو این مسئله حالا اینجا تحت از مجاز کردن معنی داره روزا بله استوا علال عرش اگر مجاز نباشه حقیقتش میشه تو همون نفشتن منطبا بیم تا حالا اینجا این حقیقت تو معنی مجازی خودش بکار رفت این, این یه توضیح ولی بازم, بازم ما مشکل اینجا نداریم باز مشکل اینجا نداریم مشکل اینجاست که و این نشستن این را ما میدونیم چیانه یعنی دعوی اینجاست ایشون اگه بگه که نه بلا هم عرش بلا سیفیت هم هم استولاد قرار گرفتن بلا سیفیت باز دعوی خیلی نیست چون با عرش بلا سیفیت هم مشکل نیست چون ما که چون اشاعره وقتی میگن این استولا یعنی تسلط و اقتدار استوا اونا هم نمیگن که ما کیفیت قدرت خدا و کیفیت استعلای خدا استیلای خدا رو میفهمیم چیه و ما کل بحثمون همینه که به تجسیم نکشه طالما اینجا که آیا شما برای عرش صفات جسمی برای نشاست صفات جسمی قائل هستی یا نه؟ بله آیاتی که هست آیاتی که هفش مورد در قرآن سمه استوالالعرش آمده در این جاها اولا لفظ سمه سمه استوالالعرش لفظ سمه, سمه سمه دلالت داره خلق از سماوات والعرد سمه استوال سمه, سمه برای ترافی حضرت و زمانی و مکانی و ترافی رتبعی یعنی استوا عل الارش رتبه اش از خلفت سماوات و العرض او چی کی میتونه رتبه بالاتری داشته باشه حاکمیت برهستی خدا حاکم برهستی هست از این گذشته این آیه آمده که رد شبهه یهود باشه یهودیان میگفتن که خداوند شش روز خلقت دنیا روز هفتم استراحت خدا میخواد بگم؟ بله من که رفتم به استراحت رو کرسی رو کرسی حاکمیت هستی رفتم یه استراحت نکردم و من حدثه نمیشم یه در سوره قاف میگه که و ما مثلا من لغوب کنید در بقیه یه جاها که آمده سمستوه سم علالت بحث اثبات توحیده این مثله برای اثبات توحید آمده خوب ترازور اینجا داشته باشیم سمستوه علال عرص تو جاهای دیگه که آمده برای اثبات توحید، تو سوره قاف که آمده برای اثبات قیامت لذا سمستوه علال عرص دقیقاً معنی شما محمد سلام لغوبه منطقه به مناسبت که اونجا بحث نفر شرک بوده استوه علال خداوند چرا معبود بلا شریک هست چون که حاکم و رب بلا شریکه حاکم و رب بلا شریک بر کل حسی این چی میکنه؟ این در سیاق نفع شرک آمده سو استوا استوه پس اتبایت ربوبیت میخواد بکنه اما تو اونجا سوره قاف که میخواد بگه من دنیا و اینا را حالی در نشدم یعنی قدرتی که دوباره خلق بکنم برام خیلی آسانتره قدرت اولیت سختتره اینجا همون سمستوالالعش رو به تعدیل چه آورده؟ با مسترامه لغو اینو توجه داشته باشید و خیلی ترائن دیگه خیلی ترائن دیگه مثلا بعد از تمام سمستوالالعشت تو قرآن همه یا یقش لیل النهاره یا یدبر الامره یا له الملک له الخلق والامر یا اینه لهو خالق و الامر یعنی چی؟ یعنی خلق از و این خلقه لهو الخلق و یعنی تون مستوی علی الامر لحو الامر اداره امور هستی و عرض میشه که وسه کرسی هستم یه جا کرسی آمده وسه کرسی هستم آبات و الامر کرسی قداوند وسهتش بند آسمانه ها و زمین هست بله آسمانه ها و زمین کرسی حاکمیت قدا هست بچه میگه ولا یعود و, و ما. و از حفظ آسمان و زمین خسته نمیشه یعنی کرسی خدا کرسی حفظ آسمان و زمینه هم اداره آسمان و زمین ازش خسته نمیشه لذا طرائین زیاد هست برای اینکه اون حرفی که مفسرین اشعریه و م... خیلی مفسرین میگن من تا بنده بازم نمیگم که این طرائین که الان بنده ذکر کردم اون نظر را پلن به اطلاق رد میکنه چینین ادعایی بنده نمیخوام بکنم سید عبیب به با من چی میکردی من اینجا موزه بگیرم من, من آقلم اینجا نمیتونم بود نمیخوام موزه بگرم چونه ما قرائنه قرائن یه نظر رو ترجیح میده قطعیت نمیده و من میشه اطلاق همینو میخوام که شما این قطعیت به ما نشون بیدی که از کجا گرفتی خوب قرائن میخوایم این که خدا رو و نهستی از احترام آنون باشه. اگه اون زمان نهیبه از کلمات استفاده شده برای دست حالا دیگه بفرمایید که نه. میگیرد. در شما طبیعی بودن داشتی. حالا دیگه بیاد بگین. اینجا میتونه بگین بازم جد. بگن این روی عرش نشست. و تدبیر آسمانها و زمین میکنه. مگه چه مشکلی داره؟ بنده خیلی نمیتونم جواب بدم بگید نه خیلی مشکل ندار ولی به ذهن ما باید به ذهن هم بکنه به ذهن تباظر نمیگونه تباظر به ذهن خیلی دوره ای طوری. ولی کسی بگی و اصرار داشته باشه بگی حالا دلیل بیار که این چرا باطله نمیشه دلیل آباد خب احسن داشت ولی قواهی کلی سلم در رست از قسطور اول مرچه قرآن و سنت قطعی که هرکی ما بزنیم. اگر دلیل قرینه ما از کجا قرمید وقتی که میگیم قرینه این قرینه چی گفته؟ یعنی دلیل از کجا اومد؟ ما مثلاً موضوعش هیچ چیز دیگه‌ای نیست وقتی من هاو زمین آفریدم خسته نشودن این کمال قیومیت خداوند است بحث حیو قیوم درست بحث قیومیت بحث اقتدار است به صورت خداوند میگه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم يا بحث القواده الاسر بعدش همین جا که اینکه نفی در حقیقت واقع بشه در مقابلش اثبات کمال برای خداست آیا این اثبات کمالی که در اینا آره؟ مثل الله لا اله الا هو الحي القيوم آیا ربی داره لتاخدو سنت و اسنت مولا به داره به اثبات برخ نمی نداره و ما مثلا القوم چطور اینا بحثش رو کرد فقط من مطلب رو نزدیک بکنم در بحث قواعد کلی قواعد کلی که در بحث اسماء و چون رب داره به اسماء و صفات فقط بیشتر میخوام تا اینکه این مرحله بس باز بشه از واژه فارس لا بس عشان صفات اولا مرجع قران وسنه إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله الى رضا رسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وطعنا ما تا قران وسنته ما بتتحاكم بقرآن والسنه بكونين من دليل بردم از قران كه استواب معناي علو و ارتفاع بفرميان دليل ياگر از قران از سنه از لغت دارن بگن استواب على بالا متعدي ميشه بفرمون بگن دليل مون اينه تا ما بقول مرو بحث آغاز بكنيم این مطلبی که رد داره از رو اما قاعده بعدی شنخطه از صفات خدا بایدی از از امکان نداره قل انما حرم ردی الفواحشا ما ظهره منها و بطر تا آخر بید و ان تقول علا الله مولا تعالی ما نمیتونیم در برای خدا کتابت بکنی یعنی خدا مرسی در رحمن عاش السوا از شخص بیاد دیگه نه با اقل من جور در نمیاد این اقل از کجا وولی بچ بيت... چرا علاوه بر لغت خارج میشی؟ اون چیزی که قران هم دلالت داره چرا میگی که با عقل من جدا نمیخوره خدا گفته میشه بالا حالا میاد ائمه چرا انکار کردم بر این قضیه چرا گفتم که ما باید یک فهم داشته باشیم یک فهم نباید متعدد باشه در واسط این موضوعات چرا چون بحث مشخصه فریقا و فریق حق علیهم ضلاله یا اینکه اصحاب ضلالات باشیم گمراهی باشیم یا اصحاب هدایت باشیم راه هدایتی که ان هذا الصراط مستقیما راه مستقیم گدون راه نمشیم به مورد اختلاف باشیم قاعده بعدی در بحث معتصفات این که این اصماصفاتی که ما در قرآن داریم چنانچه لایق شأن خداونده ما نمیتونیم کیفیتشو بدیم نه دست نه استوا چطور رفتونه بالا لیسا ک مثلی شی هو السميع البصير هل تعلمون الله سميع اینا دلالت بر این داره که خداوند همتایی نداره ما نمیتونیم به ذهن خودمون قیاس بگیریم خدا چطور رفته بالا و چرا گفته من رفتم بالا اما قاعده بعدی اینکه ما در ذهنمون تخیل نکنیم که چطور رفته بحث کیفیت دادن و تشبیه نکردن با مخلوقات و قدعه تمه از ادراب کیفیت والا این استوا که در لغت اومده به معنی بالا رفتن چطور خدا رفته بالا مثلا ما بالا رفتن حیبون میدونیم با فله با نبیدونم با آسانسور بالا رفتن متعدد داریم برای معنای بالا رفتن میدونیم برای کیفیت هر چیزی هر مخلوقی بنوعی خودش فرقه متفاوته فرق متفاوته بالا رفتن همین فرموده به اون اینکه فرANGE سر بره به انسان با انسان که از روی دیوان دیوان میرجا و فلسفیه ولی خداوند چطور حالا بالا رفتن رو فهمیدیم کیفیتش رو میدونیم نه نمیدونیم چون خداوند در قرآن گفته ولا یحیتون به علم ما انسان نمیتونه خدا رو حاطه بکنه نمیتونه خدا رو درک بکنه از لوازم اطنی افستاد اینه که هر اسمی برای خدا اومده و هر صفتی لازمش اثره یک اثری در خود رو داره از این موضوع بحث, بحث, بحث استماع بردنگی نمیگرده بلی خوب در بحث از موصفات با من قائده میشه مثلا خدا میگیم من علی محنی نازماش علم داره موعتزل و خلاص میگن نه خودا علم نداره ما میگیم لازمی علو خودا وقتی میگه العلی و العظیم و هو العلی و العظیم من خودا متعالیه علومه در بالا قرار گرفته در حدیثا میاد نسبه صریحه رسول الله علیه الصط و از اون دخترک وقتی که رسول الله میپرسدش که این الله میگه الله فوق آسمان خدا بالای آسمونه چه دلیلی هست سنت دارید از قران دارید کی این استوا و این علو و این ارتفاع خدا بر که بالای آسمون هاست که رسول الله میگه اعتقا ف انها مؤمنه چه دلیلی دارید که این علو خداوند خدا, نیس؟ خدا متعالی نیست یعنی خدا اگر متعالی نیست پس آیا اینو میخوام به ما کجا هست خدا این از سوالاتی هست که باید شیخ جواب بهش بده شکوت کردن در مقابل مسائلی که شرک؟ در مورد بحثیت خدا چطور در مورد بحثیت شیخ؟ استوه ما بحثیت خب سوا شیخ وقتی گفتید استوا یعنی چی؟ روی متعالی شد دیگه علوم بقرار... و قرار جرسد بر عرش رو و کل من رو بر خودش انتخاب کرد آیا خدا متعالی هست بر عرش نه؟ متعالی هست بر عرش یا نه؟ علوم و استوه در یک رسطه هست آیا خدا متعالی بر عرش کلمه علو را بگید میخواست از ذو رو بگید مشکلی دارید با کلمه علو همون استوار را کرد. خداون بر اساس میگید خداوند اگر مستوی بل عرش پس کجاست خوبه خداوند اگر مستوی بل عرش پس کجاست آیا همه جا هست یا نه نفی اسما و صفات خداوند یعنی ما میگیم خدا مستوی نیست خدا نمیدونه خداوند نمی این اصلا مندرش نیست ما وقتی که یه چیز نفی از خدا میکنیم باید در ایزای اون نفی باید کمال رو داشته باشیم و اتخاذ من دون لا يخلقون شیل و هم ولا يملكون شیل ولا یمکل الابوسم ولا نفع این صفات النافیه نمیتون نفر رسون بش نمیزن زرار رسون این صفات النافیه باشه که شما ناس میکنی نافیه مطلق نیست نیست نیس نیس ما هست خدا شما چی هست و النافیه صفات کمال برای الله متفوت تعریشی یعنی نافیه مطلق نیست مگر اینکه کمال رو برای خدا داشته باشه مسائل در سنت ما سریشی tarihiیش داره مثلا شما نگاه بکنی آیات خود قرآنی مسئله توذید مسئله قضیه ابراهیم وقتی که ابراهیم انکار میکنه میگه یا ابی لما تعبد ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک عنک این ذلالت در چی میده در این میده که ناس یعنی کسی که نداره مثل کسی که داره نیست آیا وقتی که ما میگیم خدا مستی بر عرش هست مشکلی داره وقتی که ما اثبات میکنیم با با کمال نزاهت وقتی که میگیم خداوند بر عرش متعالی هست که ما یلیق به جلال الله چون ما یعنی حیات ما تا به ما بگیم زید شجاع نیست ما زیدون به شجاع هیچ معنی داره نیست فقط خدنا محضه محض زید شجاع نیست یعنی ما فهمت چزایی میاد یعنی تنبل یعنی سوسه یعنی بی بی بیورده هست جرأت نداره این مد... این این که میاد خشه مسئله ای کردن ولقد خلقنا السماوات والأرض بيننا في ستة أيام وما سن من لغب إن كمال كيوميات المقصوم والقزم تجبره همين أيها الخدمان تجبره وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض ولا في الأرض إنه كان عليما كثيرا علم خدمة قدرات خدمة وقتی که خداوند عاجز نیست وقتی خداوند خسته نمیشه یعنی خداوند کمال قدرت داره یعنی نفی این صفت متضمن اثبات صفات کمال دیگر برای خداونده و عموم مسائلی که در نشص قرآن و سنت میاد اینطوریه مثلا <تصفح> نافي اثبات زیاد مثلا در لغت عربی وقتی میگن شجاع الاذ شجاع نیست مگر ذی مثل لیست کمیتی شعی و سمیع البصیر اثبات کمال تفرد یعنی هیچ کس مثل خدا نمیتونه بشه نمیتونه ببینه خدا همتی نداره راست مصفاتش برادران ما داریم بیان تقریبا <تصفيق> شمال در حال هستند و ما داریم یعنی خب من تو این صحبت ها هیچ دلیلی ندیدم الان کلی گویی های بود یعنی اگه اینطور بخوایم اینطوری صحبت بکنیم هیچ وقت به چیز نمی رکیم ما اینجا خدا کجاست؟ من یت... سوالی مطلب که خدا کجاست؟ بله ما یک مطلب باید اگه دواد این مطلب من دار داشتم شخاخ بشه خدا آیا ما برای صفات او برای عرش مابقی صفات جسمیت قائل میشیم یا نمیشیم این محل نزاز مابقی همه کلیاتی هست و با این کلیاتی ای طور حمله کردن به اونا این به چی داریم حمله میکنیم و چی داریم حمله میکنیم مقابل ما علما هستن اونا همه عالم بودن و, و این ای قرائن هم داشتن اینا همش قرائن تفسیری هست من چند نمونه دیگه کردم و در تا از اینا رو یاد کردم دلیل لازم نیست اون رفتا هی پکر لغت عرب که این تو لغت به چیزان نده یا کنید من تو اول بخت زبان کردم حالا من این قرآنی ای که زبانی چطوری چطور من یه نمونه مثال میدنم زبان قرآن چطوری هست خدا گفته سبعتم یو الله فی ظل حق برو زیر سایه خدا هستم و زبان عرب زل میگه زل. اما شما بیاد زبان قرآن برای اوقللا آمده. برای هوش اول هوش گفتم او پیرما اوش شاگردش که به اون حاکم پیر اگه شاگرد باهوش نداشت دیگه به دردش نمیخورد من اینطوری میگم. ما میگم که ما از تلفیت با این و... با این ترت بخوایم داشته باشیم ما باید اومت امتهای قبل میبودیم بودیم.سلطیت با این نگاه که عبارات و قرآن را به همین عبارت ها به نصف همیدن این به مال امت های قبل بود و بشهر به توان اجتحار داشت باز بنده میگم که خداوند همه قرآن را روحهدت آدم نازل میکرد تا قیامت دیگه نمیفرستد حالا من این مثال میزنم سب اطن یزه الله حالا ما این کجا نگرد بله شما را در اجتحار بزنید من از با با خدا. من از ایشتهادم با خدا. من از ایشتهادم با خدا. که از من از با خدا. با خدا. من از ایشتهادم با من از ایشتهادم با خدا. من در سایه خدا هستند هفت غروب هیچ چی نمیفهمی ازش از لغت‌تگی میری هیچ وقت معنی نمیریسی باید از خود اشارات و نص قرآن استفاده کنی بنده میفرمایم می اینجور میگم بشه میگم یعنی قرآن اگر 500 صفحه خودش 500000 صفحه اشارات و نص بشه اونورا هم باید خوند و باید نه توشه خیلی چیزا تو اوناست حالا اله همین مثاله هفت غروب زیر سایه عرش خدا هستند اینو از کجا باید بفهمیم ما میمیم هفت گروه که اسم برده ای هفتا چه خصوصیتی تو هر هفتا مشترکه بعد که دکت کردیم گرگه میکنی تو تنهایی صدقه میره با دست راست دست چپ نمیدینه حاکم عادل نفر اولش چون ادالت دشمن تراشی برای آدم میکنه دشمن برای آدم درک میکنه قلبه و معلقه به زن زیبای فلان میگه که این یقاف الله همه اینها اینا یعنی مخلص. پس ما اینطور نتیجه میگیریم نه هفت گروه مخلصین زیر سایه ارش خدا هست اونم زیر سایه خدا هست حالا سایت سایه ایه وگر ما لغت بعد با چطور و در بیاریم مانی اون مشکل ما این حل میشه ما زبان قرآن باید یاد بگیریم بلند نیستیم من معذرت میخوام جسارت نباشه خودم اولا خودم بلند نیستم سایه چی میشه چون انسان ها تو دنیا وقتی کار میکنن میگه من میگم پشت نماز باشم خوش توتم سایه شخصیتی برام درست بشه من تفسیر در سرم سایه اعتباری برام درست میشه این سایه ها میکتی که دنبال این سایه ها نباشی تو دنیا تو کی نماز سایه خدا رو سرش سایه شخصیتی سایه اینا پای شما از لغت در عرب دربیای جوش ببینم که میشه در آورد یا اینم اون یکی مثلا لا یمسو من میگم این لا یفهمو الا المتطهرون لا یمسو یعنی لا یفهمو فقط قاهران میفهمند. حالا بگو از کجا آبالی تا من دل بیارم رشت کجا در آوردم توی لغت هم نیست اینطور ما بفهمیم چه ظرفیتی داره زبان ما بعد همه جاشم از مقاله ارش هست ارش هم به رو ارش به خصوصی دوا اینه که صفات جسمیت جنابالی برای ارش و نشستن خدا قائل هستی یا نه ما بفهمیم که دوا داریم یا نداریم بله یه لحظه خواهی که نزاران شما از خدا مستقی بر هر نیست خدا بله، حالا همینه. ما از یه طرف میگیم که خدا رو با عقل نمیشه فهمید، بعد میگیم که حالا بحث جا میکنیم کنیم. با غافل از این که جا تا جس نباشه جا معنی نداره. خدا نداره. خدا اصلا جا برای خدا معنی نداره. نگاه کنید بعد اینجوری میگن، من تو کتابشونم تو کتاب هست فرمان میگن که اگه خدا میگه رو ارس نیست تو دنیا هست، تو دنیا نیست داخل دنیا که نیست خارج از دنیا هست، خارج از دنیا هم که میگی نیست بعد جز دنیا است غیر از دنیا است تو ای جهت هست. تو ایجه هت تو اوجه هت بعد به ایجاز کرده تید میگن حالت ناقصه پس صفات متعارض را که لایت داری نفس میکنی این تاروز آمیزه تاروزه ما چه دوام میدیم بگیم تاروز وقتی هست که تصور جسم داشته باشیم از خدا ما تصور جسم نباید داشته باشیم مثلا ما بگیم دیوار نه عالمه نه جاهل هست یا نه حالا تناقض گفتیم نه کور نه بینا نه شنواه هست نه کر دیوار تناقض داریم نه چون دیوار قابلیت هیچ کدوم از اینا نداره. حالا بحث نیست که خدا جسم نیست و قابلیت هیچ کدوم از این صفات جسمی را نداره و هیچ تناقضی هم پیش نمیاد یه کم به من را باید وسیع بگیریم کنید هستی چقدر وسیعه من این مثال فقط یکم جمع هستی فقط هستی جسمی نیست گذشتگان این میگفتن مشکلی نمید امروز ما می است. انواج انواج فرا به نفت انواج بادون قرمز انواج دونم. او فرکانسی که ما میبینیم از چهار تا و, و نمی دونم تا هفت سد یک دریست ایک از فرکانس هزار میبینیم یا چقدر فرکانس هست ما نمیبینیم این انواج چیه؟ چه جنسیه و این یه, جور... یه دست موجودات خدا هستند که ما اه... وجود دارن به جسم هم نیستن انواج انرژی چی؟ یکی از مخلوقات خدا به جسم نیست؟ بعد میگم معقولات چه؟ مفهوم انسانیت این وجود داره یا نه؟ یعنی؟ این کجاست مفهوم انسانیت؟ یکی از موجودات خداست اما جسم نیست من میگم که مفهوم فضا الان مدرسه خودمان یه فضای روش حاکمه این فضای موجوده یا یعنی؟ نه؟ یکی از موجوداته تو تأثیر میذاره هرچی که اثر داره وجودم داره خو این وجود فضا ای چطور وجودیه جز حاکم جز دوره جن جز قبل از این جز یک از موجوداته این چطور جنسیه؟ از چه جنسیه؟ ما به ذهن ذهنمان افکت می‌کنیم که خدا خیلی مخلوقات میتونه داشته باشه که جسمی نباشه حتی خیلی فراتر از اینه شما به ما یاد میدی که یا قبل دنگلاب دو خدا از ذهن خودشون جملان ندید چرا داره جملان می‌دید؟ نمی‌دونیم خدا از چه جنسیه؟ با. چند خب؟ از این با این بحث دوارش دوارش اگه تونس اوباد می کنم. من مجبورم تونس ای سواری بکنم. اول الشیخ. سبعتمی ضد الله حدیث با حدیث شرخ می شه. الله تحت ظل عرشهی. حدیث ما در لغت عربی داریم یه جا شاید یکی ربی استصحاب کنه شاید یکی به طور مطلق روایت بکنه حق با کیه طب وقتی که مقید اومد وقتی که زل مقید شد به عرش دیگه تمامش برف حلت طرف حدیث هم صحیحه برمی‌گرنه میشه صحیحه ولی صبرت یذبه الله تحت ظل عرش این اولا دوم من مساله ند آیا شما از نظر شما خدا دیواره دیواره که نمیشن ب بنویسی کر نیست لال نیست لال نیست نیست نیست نیست آیا خدا هم مثل دیواره یعنی قیاس میگیم خدا با دیوار چرا خدا میگه طلعت در الله لله الامثال مثلا خدا نزنی؟ چرا مثال دیوار میزنیم یعنی این موقع انصاف با خدا خدا ما بگیم دیواره آیا نفی محض اصلا مدح درش مثلا ما بگیم نیست الله خدا نیست نیست نیست خب پس چی هست یک وجود تصدیق عقلی که معلوم نیست چی هست چی نیست یک وجودی بس حالا این وجود چیه ابن سینا میگه یک عقل کلیه اصلا اصلا نو بگید اصلا محور بحث اصلا این کلمه جسم خدا جسم است جسمیت اصلا این از کجا اومد آیا در قرآن داریم رسول الله گفت خداوند در قرآن گفت من جسمی سم جسم هستم ما میگه ما متفقیم اصلا نمیگیم این الفاظی که در قران فلاتقما ليس لك به علم علم که بشد این حرف نزن کلمه جسم رو کی آورد این کلمه رو کی آورد ابن سینا آورد ابن از کجا آورد ابن سيراد الكتاب النجوم قال إنه واجب الوجوب بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوب فهو ليس ليس لجسم ولا صورة جسم ولا مادة معقولة من صورة معقولة كتاب النجو سفئس يوهاف حامنه فازي عبد الجبار متبانيش بشه جالبني قاله فازي عبد الجبار جالب اشترك انحراف شراف ندا راسيش جملة القول في ذلك هو أنه تعالى لو كان حيا بحيا خدا زندات بل زندقاني ناداره يعني حياة ندر ترى والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها ضربا من الاستعمال شو نمي شلم حياة نتساولها بخل المدني كبهو خدموا قياس بيقريب لو وجب أن يكون القديم فعال جسما وذلك محل. شو اللازم أي حياة جسمو دنه بإن محاله بخاطر هابينك أئمي مثل امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافی این علم کلامی که اظهار نظر درباره خدا میشه به منظمت میشه مورد میگن این صحبت کردن این کلام فلسط یونان این کلام منطق ارسطو و سقرات محلق و جایگاهی در تشخیص درست و ثواب قرآن نداره این جایگا یک در شانده داره این قذیه جسد <سيح> من سنهات <سيح> این ربتاز ارسو بر ای ربتاز که بل جسد چون نوسته سفاده ربست خودمان نبال این ربسته داشت روشه امام بحانیفه میکن ما تقولو <تصفيق> ایما احدث الناس من الكلام لف الاعراض نو کتاب جلد سفاش با افقده کتاب با اسناد بود مردم حدثنا اهل حتنا من المطيطه آخر اشم بيه ما تقولو ایما احدث الناس من الكلام لف الاعراض وال فقال مقالات الفلاتفة عليك بالأثر وطريقة الصلاة وإياك وكل محدثة فإنها بدعة إن كلمة مبتدعة في ثم الدنيا كما الدليل بياري الآن القرآن بصي التحكم بقرآن والسنة القرآن والسنة دليل بياري خضران جسم غير ما إمامي أبو حديث بوضع من لعن الله عمر بن عبيد إنه فتح للناس الطريقة إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام واضح قويتهم من تمام إمام مالك رحمه الله شو بياده millions إياكم البدع فقيل يا أبو عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أثماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إمام زهابي أزمان الشافعيين نحن مكرّبين جد متوطّنهم ترك إمام زهابي عن الزعفراني وغيره سمعنا الشافعي يقول حكم في أهل الكلام نواب کلی ائمه من آوردن حرف امام محمد بن حنبل، نه حرف یحیی بن معین، نه وردم قاضی، حرف... نمی‌دونن حسن بصری و دیگر دیگر سران ائمه، اون چهار مذهبی که ما مشهورن به عدل و انصاب مشهورن به دین و دیانت و فقه و فهم صحیح، ما اصن نووردین، هیچ اختلافی در این قضیه هم نداشتند در این که علم کلام علم مذمومیه چون إظهار نظر درب ريح خدا بأن و ما حق فار نزاد درب خدا بأن نذري الإمام الشافعي حق في أهل الكلام أن يضرب بال يضرب بالجريد على العبل ويطوف بهم في العشايق ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام وقال ابو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي قال الشافعي مذهب في اهل الكلام تقرير رؤوس بالسياق وتشيد في بحث شخص. بحث علم کلام و فلسفه شیخ جسم اهل سنت سارمذهبش ائمهش به اتفاق علم کلام مزمومه هیچ کدوم از ائمه نگفتن این حرف و این کلام مزمومه و این ادله از ائمه اهل سنت و جماعت در محور بحثی را بشه در محور بحث در محور بحث شیخ شنی بار به با من میگی از بحث خارج نشید شیخ ده بار از بحث خارج نشید ده بار بیان گفتید بس خارج نشو توی باشه. شیخ، یک بار از بحث خارج، بیرون خارج میشی. خارج نشدم. منظورم اینه که شما در بحث به از ذهب کلام بود. فاینال شباب، دوستاتون جس، شیخ 10 دقیقه صحبت میکنه یک بار قد نمیکنه. هر حرف زدم میگن از موضوع خارج میشی. بحث قواعد از مصوبات گفتم گفتم رب کی نداره. خب اینجا لغش داره نداره. وقتی که ما میگیم قواعد رو میاریم میگیم می ما باید به با قرآن و سنت در بگیم. چرا میگیم به قرآن و سنت در بگیم؟ تو این حروفات پیش نمیاد دیگه. این مشکلات پیش نمیاد. چرا میگیم باید ما به خدا قضاوت نکنیم؟ این اینجا مصدرش اینجاست. به اینجا به در میخوره. اگر من قواعد آوردم به خاطر اینه. مال. نه من تو اینجا دلیلی ندیدم بگم رد بکنم این اینجوری من من منتظر دلایل محکمی بودم ما وقتی که فرقه‌ای مثل اشاعره این الان علمای تراز اول رو میایم مقتدی می کنیم باعث خیلی هر هم اون پورتفولیو محکمتر باشه خیلی چیزها باید داشته باشیم و بنده هم موضوع را که ضعیف بیرستم گفتم دفعا نمیتونم بکنم امروز که اینطور گفتم هر قصر درست رو لیزه حالا ارض میشه که دلیلی یک بکنی باید که باید, باید بله این مثال دیوار که زدم که تکر نکنم تکرین ردش جواب بخواد ما گفتم که یه چیزی که از اوجنس جنس نیست یعنی قابلیت یک صفاتی نداره بر ما این بود خیلی جوابم نمیخواد جوابم نمیخواد من گفتم جسم باخت قابلیت صفات انسانی نداره تو صفات انسانی به هر دو تقابلش ازش نفی بکن هیچ تناقض محال منطقی پیش نمیاد چرا چون جسم قابلیتی هیچ گونه دیوار قابلیتی هیچ کدوم از مصافات انسانی رو نداره نه عالم نه جاهل نه کر نه شروانه بینا خب حالا من خیاس اینطوری این دلیل گذاریم که خدا هم وقتی نیست هیچ کدوم از جسمی نه نداره نه تو دنیا نه بیرون از دنیا نه, با... نه فوق آسمان نه زیر آسمان چون همه زیر اوتا این هم صفات جسمیه و از میشه که ما وقتی که بگیم خدا جسمه مشکل همونجاست ما وقتی بگیم خدا جسمه خیلی مشکلات پیش میاد یه مشکلش اینه که وقتی که جسم و کمیت داره جسم ما میفهمیم چیه اگه جسم میگی و بعد تعریف چیزی دیگه است غیر از موجود زیباد سلاسه تعریفت هست اون دیگه اشتراک لفظیه مثل اینکه من رو شیر چارپا دارم بحث میتونم چارپا دارم شما چار شیر خوردنی داری بحث میکنی این دیگه بحث نداره دوا هم نداره اگه جسم منظورتون اینه ولی که منظورتون جسم زیباد سلاسه هست که طول ارزو عامل داره این تعریف جسمیه اگه جسم اینه اون وقت باید یکی با تمیت داره کیفیت داره عین داره تمام اعراض محگان ارسطویی داره یا نرمه یا شله یا سفت تمام اینجور چیزا تو یا درازه یا سفید یکی از رنگ ها تمام این اعراض دیگه داره جسم در بشه این یک مشکل اگه بگیم جسمی چه مشکلی داریم بله چه مشکلی داره ای یکی کلی اثبات برات چی بکنید این کسی نگفت خدا کسی نگفت خدا جسم نیست باید دلیل بیارید با محل جواب از قران از سنت که یا اثبات بکنه جسم است یا اثبات نکنه که جسم است که کرده خدا گفته من جسم نیست دلایل گفتین بیارید نه گفتیم گفته که نه گفتم که کلام از رسول نیست ما میگیم که نقد ما شهر گفته که خدا رو تصیف بکنی در چی از تمام نواقص سنت و علان مش خودش گفته ولی مثلا سرد بشون گفته بهدوگو تو کجا گفتی که خدا سرش درد نمیکنه؟ و هرچی ننفسه از خدا ننفس میشه، هر چه عجزه از خوددا نف میشه. این یه نقش که تمام صفات جسمانی و ماده با را میکنه یه نقص دوم جسم چیه ؟ نقص دوم جسم اینه که جسم تغییر میکنه. و خود تغییر نقصه توون تغییر یا به تکمیل یا به تنقیف هر دو اشکال داره. به تنقیص که اشکال رو به تکمیل یعنی نداشت کامل تر شده. و این فی شی ان تردو و الرسول. و بله علی با، نبی پیدا و الله و الرسول. الله و رسولش کجا گفتن جسم هست نیست؟ بله نیست دیگه هیچ جا نگفتن تو نصوص میان که قرآن اقرار دارید که چیزی در نص نیومده که نه جس به اثباتش نیه، نیه. مشکل فقط ودا برای خدا سؤالی و همون تو همینه و بزرگترین مشکل همین که ما قرآن را به لبزش میدنی می مشکل من ارسوس نه خیر. مشکل بشنه از قرآن قرآن قرآن ششتت هزار صفحه اشارات و نصف به دهان پر میگم ششتت هزار صفحه ششتت صفحه خودشه ششتت هزار صفحه اشارات و نصف شه گفت متکلمین لیگه من نصفی کلام گفت باز من یه جواب بدم ایشون گفت متکلمین و کلام اینام. خب خیلی ساده جای دور نمیریم. خدا گفته من همه را هدایت می کنم یا نه گفته هرانی للمتقین فکر لج نداشته باش من هدایت می کنم متقین لج نداشته باش حالا به هاشو بگیم تو کجای تو کدوم حدیث آمده که متقین لج نداشته باش ولی اینا استنباطات تو قرآن حالا قرآن میگه لج نداشته باش من هدایت می کنم خیلی خب حالا پنجاه تا فیلسوف دیود ایشون با تکلم اشایره باش مشکل داره من میگم 50 تا فیلسوف تو دنیا ما یه قرآن بدیم به مارکس کمونیست به راسل ضد خدا به نیچه به شپنهاور و به 50 فیلسوف دیگه نفر, پنجه نفر یه دانه قرآن بهشون بدیم داروین فروید اینا همین لج نداشته باشن قرآن هدایتشون میکنی یا میکنه یا نمیکنه علافره در دم الی بکلام مینام و گفتم من جواب میخوام بلام قرآن هدایتشون میکنی یا میکنه یا نمیکنه و این که هدایت میکنه هدایت میکنه او را به چیه میگه که او را هدایت بکنه یعنی به او میگه ایستا اول کل ذهن شستشو بده پاک بکن همش پاک کن مثل یه آمی بشو علیکم به دین الاجازی کامل حالا بیا من هدایتت میکنم اینه یعنی مارکس ها به مارکسیش هدایت میکنه یعنی سوالات انحرافات ذهن او را اصلاح میکنه قرآن وقتی که به کفار زمان پیامبر در میگه قل هات برهانکون امکان صادقین به کفار این زمانم میگه قل تو برهانکون امکان صادقین یا نمیگه خیلی خب میگه و اون آورد مال خودش جواب میده یا نمیده تو کدوم نصه تو کجای قرآن است تمام مشکل ما رو با زبان قرآنه بنده 8 تا دلیل فلسفی اثبات وجود خدا رو از اول سوره سبحانه می در آوردن نمیخوام بگم که که من زرین بودم که بخوام بگم قرآن این تو اینا توشه ما چه ما اینجوری تأخیر نکنیم با این اعتقادات این کسانی که این تخصص تو حدیث اینا دارن چه معارفی رو به بشریت به دنیا می‌ذارن پامپاش بکنن امروز تأخیر شده با این اعتقاداتی که داریم تفکر دیگه, دیگه جایی که تمام شد سقف این اقیانوس را در پنج متری سقف کشیدیم این اوقیانوس به این عظمت پنج دقیقه تو رفتم من در حالا ببین همه بعد بعد دقیقه باشه چاش این طالب حالا حالا من, من اینو گفتم 50 تا فلسوف بدیم هدایتشان میکنه یا نه هدایتشون میکنه چون که چی چون که تمام فلسفه ها به اضافه نقدشون در قران هست حالا ببینین اون نصش و اون حدیثش اون کدوم زبان عرب چی گفته و چی چی گفته؟ هست تو قرآن هست با نقدش چون قرآن گفته من هدایت می‌کنم من هدایت میکنم هدایت من میگه هدایت کردنش هم به همینه امروز علوم ال... علوم انسانی یکی حاکمیت و یکی مدیریت بشر به بوحده گرفته آیا علوم انسانی تو قرآن هر تماشیانه اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، روان شناسی همه تو قرآن هست یا نیست اگر نباشه از این مدیریت حاکمیت بشر روی برسته این تا علومه و هست قرآن نقد این هم تو قرآن هست حالا توی فیلم یک سوالی فقط برم خدا جس نیست حالا نظر شک دلیلشون عرصو است. دلیل که از قرآن که نبود حالا خدا جس نیست چیز هست نیست چیز ما آن چیزی که میدونیم این چیز شما چیزید ما چیزیم <متصف> نه <متصف> <متصف> چی پردا که جسمیت نقصه این اولین دلیل جسمیات چرا چه نقصه گفتند یکی این همه آراز باید به غیر هر شما بگو سفاد. شما بگو اوصاف این یک دلیل دلیل دوم یعنی خداوند هر گونه صفتی داشته باشه چرا اینا حالا بعدش نه نباید خداوند هیچ صفت اعراض چه صفت اعراض وقتی گفته یعنی دیدن شنیدن نمیدونم دعال نمیدونم زندگانی همونطور که جبار جبار که گفت گفت خداوند حی اسمه بدون حیات بدون زندگانی خدا زنده نیست آیا شما هم همین خودا هم برده هست نه اجازه میخوام که خودم حرفا که تمام شد بعدیشون حرفا خودش هستی قرده بگی بله. لذا جسم نواقص داره که گفتیم به گفتیم و این دوم اما دلیل دوم توضیح دادم اونو دلیل خیلی توضیحات دیگه هم داره البته و اما دلیل دوم دلیل دوم که ما اصلا نمیدونیم خدا چه هست چرا من چرا این حتماً الا دلیل دومه ولی که جسم هیچ نقصی نداشته باشه ولی که جسم هیچ نقصی نداشته باشه حالا ما بازم نمیتونیم به خودش تعریف کنیم چرا چون ما نمیدونیم ماهیت خدا چیه جنس خدا چیه این اتفاقا خود سلط یاد ما دادهند به هر به و به درستی که ما خدا را اصلا نباید تفکر کنیم تو ذات خدا رو خرج بدیم ما نمیگم چرا نمیدونیم چیه حالا برای تقریب به آتن یه مرچه‌ای داره اینجا میره این مرچه بخواد عالم انسانی رو فهم بکنه عالم انسانی علم چیه استعداد چیه عشق چیه کینه چیه دشمنی چیه بخواد عالم انسانی او چه تک امید باشه با حد همون شعور شعور داره مرچه شعور هم داره در حد خودش چون شعور ما به نسبت شعور عالم ربوبی از شعور مرچه نسبت به ما کمتره تره دور مکلف لازم ما هیچ چیز نه نسبت بدیم بخوره مطلقا آل... كل عالم كله عالم کل مشکل بازی که از مشکلات چیز هم همینه ما نمیفهمیم شیطان چیه نمیفهمیم جن چیه نمیفهمیم عذاب قبر چیه هیچ اصلا عالم انگور بهش ما نمیفهمیم چنگوریه هیچ ماهیت یعنی خدا جس هست نیست نمیفهمید هیچ خدا نمی خدا جسد هست یعنی هیچ ماهیتی گفتم که هیچ ماهیتی را نسبت به عالم غیب اصلا ما مطلقا نمیدانیم نمیدانیم یعنی حال گفتم یا نیست یعنی خدا حالا جس هست نیست؟ دلوقتي. نه نه، شون اول گفتن خدا جس نیست چون جت صفات نفسه. گفتن جس ت مقاد عسببی که اون تا جرم حج و از نداشته باشه؟ خدا نباید جس باشه. حالا این جس نباشه کدام هر کل ما ف بکنیم هرک آخر که نمیدانیم یا هر حرف, حرف اولین که نیست حالا خدا جس هست یا نیست یا ما نمی دانیم هست یا نیست؟ شما اینو هم زمنه من گفتم نمیدونیم چون خداوند در قرآن و سنت نگفته ما نمیدونیم جسد هست نیست کلمه جسد به خدا نخرس و ما بکار بردیم بعد از درد از کجا آمد لله المثل الاعلى <però sincer> <nochmal> ما <تصفيق> <موت> لله المثل لله المثل شما استدلال می‌کنید و المثل الاعلى <تصفيق> خب پس شیف گفتن که ولله المثل الاعلا دلالت بر این میده که خدا جس نیست الله المثل الاعلا چون انسان ها دارن لازمه یه جس نبودم این که انسان نباد ببینه خدا نباید ببینه چون جس میبینه خدا نباد بشنبه چون انسان بشنبه آیا این لوازم را قبول دارم سای که بحث شروع بکنم یا این قبول ندارم گفتم خدا جس نیست را و صفات جست رو نداشته باشه ولی الله الا الملک ال اعلا کردم الله الملک الا علا این این جسد میبینه میشنوه آیا خدا هم میبینه نمیشنوه جواب بدین تو که من از موضوع کاریش خودش رفت خودش رفت من من رفت جواب بدین تو میگم خدا یا میده خدا میشنوه نمیبینه میشنوه یا نمیشنوه چرا به صورت نمیگه خدا میشنوه نمیشنوه تو گفتید ما میگیم مشناvem دلیل میار میشناvem poi چرا میشنه این چه ربطی داره خودت گفتید دیگه شما گفتید استدال گفتی کردید الا الله از الاعلى این ایمی خدا جسد نیست خب گفتیم که پس خدا جسد نیست جسد میشه میبینه پس خدا نباید جسد باشه اینا ای ای ای علم کلام ای هست علم کلام یه علم محترمی هست که انسان ها میرن بعض مقدماتش و اصطلاحاتش و شروعش میکنن بعد دیگه این شوباهات رو تو این سادگی براشون پیش نمیاد نه اینه منا ائمه محترم نبی خب بعد دیگه بیچاره چه شبهاتی میگی بیچاره چه شبهاتی میشه بعد دیگه. خدا علم داره اراده داره قدرت داره کل صفاتش داره واسه اینی که صفاتش جسمانی نیست یعنی میبینی میشه صفاتش جسمانی کل صفاتو داره انسان میبینه میشه جسمانی نیست صفات جسمی دیده نمیشه اگه شما نفی کردی جسمیت از خدا با صفات ما خدا نمیفکنی واسه بگی خدا نمیمینه میشه نه خدا میبینه نمیشه جواب من ندونم که میشنو نمیشنه دکتر اله نا نه اله شنیدال میشنوه میبینه یا نه سمیر عباسی خدا یا نه نه واسه جسم دیگه پس این دو معنی رو این معنی مثلی شد که که لازمه مستوی بودن خدا اگر بگیم خدا مستوی جسمه به خاطر همین بحث اینجا کسی این بحث جسم مسکوجی اصلا نیست فرات <تصفيق> نه من تو جواب نه مشخص نیست که متقاعد میشان تاس خدا اتا چیز هست نیست اتا خدا میشان انسان چیزه این چیزه من چیزه میان چیزه هست. خدا چیز هست نیست خدا چیز هست یه چیز هست که رفته بالا یا نه خدا چیز هست یا نیست خدا ما ماهیتش اصلا نمیدونیم چیه. جواب نه فقط خدا نه اتا چیز هست یا نیست نه فقط خدا منته بلکه کل عالم غیب از ما ماهیتش نمیدانیم چیه به بفهمیم چیه. چیز هست نیست. <تصفح> خدا این خیلی واضحه تو بر یعنی این سال بی نیست کنید خیلی واضح خدا علم داره تمام این صفات که تو قرآن که اینا اثبات شده هست داره مثلا رحم داره ولی رحمش ویژگی جسمی نداره علم داره علمش کیفیت جسمی نداره حالا ما هم همه این صفات را داریم مونتا مالما همه با کیفیت‌های نقصان جسمانی همراهه میبینه نمیشه وقتی که به خدا میبینه نمیشه وقتی که برای خدا اینا رو اثبات می کنیم این استفادرا اثبات می کنیم کلا کیفیت جسمانی رو تا اونجا که عقل ما می‌کشه تصویر می کنیم نقش و دیگه اینکه چه هست؟ دلغا کنید ما در رابطه خدا میدانیم که چی نیست هر چی از کیفیت و هر چی از ماهیت به ذهن ما میگیم تطبیق میتونه میگیم نیست. یعنی نمیشنابه نمیبینه. نمیشنابه چیه؟ یعنی میا صفات از معلولونه که تو قرآن آمده همش داره با کیفیت جسمی نیست. طب یعنی نمیشنابه میبینه یعنی نمیشنامیبینه. حالا اگر میشنابه، اگر میشنابه و میبینه شما گفتید که صفات جسم خدا نداره. خداوند در قرآن گفته انسان سمیع و بصیره. انسان میشنابه و میبینه. شما گفتید خداوند چه صفاتی داره؟ صفات جس دیدن شنیدنه. شما اگر گفتید اصرار کردید بر این که خداوند جسم نیست صفات جسم مثل انسان هم نباید داشته باشه نباید خداوند سمیع و بصیر باشه مثل انسان انه کان سمیعا بصیرا ما این تذارین بحثای توییتر اینطره نشه شیخ بریمان نشون نیست که من بحث اداره بدم چه خب بسیار عالی سميع و بصیر لا تمام شیخ مجلسی گفته خدا جسم نیست ایران هم در بالا اومدین همکه دارم اینطوری ندارم، اما صدایش یه سیاه نداره صدایش حالا همینه وقتی که علم کلام نمیخونیم با صلاحاتش و نیستیم یه صرفه هم نخوندیم و حب حکم تحریمش میدیم حکم دلالتش همین من گفتم خیلی شفافم دارم میگم و خیلی زشته که این این بحث میشه که خب حالا پس انسان که چشم داره شنواست و بینا خدا هم شنواست و بینا استفاده جسمی برای خدا این چه حرفیه خیلی زشته خدا تمام صفات را داره صفاتش کیفیت جسمی نداره مثلا رحمت داره خدا منطقه رحمتش این نیست که دلش به رحم بیاد و انسعال نفسی باشه یا خشم مثلا در ما همراه با با زبان قلب و بانه میدارم حالتهای جسمی همراهه این باشه که در خدا هم با حالتهای جسمی همراه باشه خلاف این امید... هم... عبدالجبار گفت که عبدالجبار گفت که دیدن لازمه جسمه شما تا تتس... مبتکی مضاف خلاف نیست، شما خلافی نیست نه من. اونم میگه چون نگارید خاطر مسیر اینجا عوض میشه. خلاف میگه هر نه. نو... نه شیخ، شیخ, شیخ گفت من مد... جوک مالکی المدافع استولا هستم. من اومدم از استولا دفاع بکنم. رد بر خلاف در این قضیه. علی جدل مضمون میگه این میگه کلام مضمون میگه جدل مضمون. جدل که به عین همین شده اینالو نمیگی که مجبور با جرایل هم بلدی یه شما شما اثر قبول داری خدا چی تاثیری؟ یه احتن چی؟ جواب نه نه شیر این سؤال من خدا, خدا چی تاثیری؟ سفاد سفاد این دو می‌تونه باشه، اما دوست داریم آخرین دلیل هر چی می‌کنیم. ولی دوست شریف الله، ما با هم اون دوست دارند، اما این دوست دارند چه؟ این دوست دارند. گرامشتران، دلیل آخرین من خراب دلیل؟ من دلیل دارم که قوله عليه السلام قوم الذين فيه يمن عليهم بالفضل. قد مرتبط ببعض السواب. نسيواده ومحمد يذكر وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الاعلى يعرفون ربهم من فوقهم انك اني متوكل ورافعك اليه وهو القاهر فوق عبادي الا امنتم ما في السماء نها نعد لله اي حسن بالعلوه قدام بل عند قدوام چطور والا هست ما نمیدونیم حدیث جاریه که ما گفتیم الانم می‌بینید درو چطور و این چیز متقرری بوده در نزد زهابه همونطور که میگن ان جو دینات میگن ذوالکنا حالکنا و زوجنی الله من فوق سبع سماوات بعد معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم به آثابون همه در بر دل و متعالی بودن خداوند خداوندا بالای عرش همه جا نیست هذا الحديث الذي يجب أن يرأى الأمر قال صلى الله عليه وسلم عندما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو, فهو عنده فوق العرش فوق العرش قال عرش إن الرحمة غلبت رضبين يقول أنه سألتك بيادة الرحس العلو فضى الله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الضبوية والألوهية بشيء ولم أسألك بأس كذا أنت تجدك الآن بأس استباهة حقيقة یعنی ما ادله های زیادی داریم که بهش استناد میشه شبهات زیادی هست که ما باید پیش بردازیم شبهات بحث معیت و جهات آیا یا جهت هست نیست ادلهای خلف دارن که من اینجا ادله ها رو آوردم برای ردش برای تحلیلش ولی خب متسوفان شیخ به اون ادله های کلامی که میگن من اینجا بحث آوردم که جواب اهل کلام بدن شیخ میگن علم کلام علم کمی نیست و بفرمونین علم کلامش رو, رو بکنه تو ببینیم اینا کلامشون ماکان جا و جایگاه و منزلت مقام بالای حرف منشوری و مالک مالک و نه بدون ابو حلیفه رو بزنیم دیوان همون خودشون گفتن قاعده جدید هر من خلاف و قران و سنت بزنیم دیوان بیان من این کلامی که اینا میگفتن مذموم بیان مدحش بکنن بیان بیان با همون کلام اثبات وجود ذات باری تعالی بکنن بیان اثبات بکنن که خدا بالا هست نیست بیان رد بر ما بدن اما مالک میگه الاستواء معنی استواء معلوم می‌دانم لغت عرب. و کیف ماجول نمیدونیم منم بدونیم. والإيمان بهی واجب. فزیفیم ایمان است. در قرآن مذکر. این نص که متواتر از ائمّون مثل امام مالک و ائمّی مثل کی بهتون بگم بخوام از طلف نام ببرم. یکی دو تا سه تا چند تا نام ببرم. یعنی بقول مربوط قابل. هست نیستن از طلف که که قائل به این بودن که خداوند متالی بر عرش. اگر میخواهی تا من حسابیشون رو ذکر بکنم و هاشون رو بیارم اگر وقت باشه تو من بگم بغضرا مثلا خلاصه‌ای از ادلهتون همین بگید ما راحت میشیم بخت این بقيه ادله صریح من گفتم از قرآن از سنت به این که بله اگر اگر شما میخواهی ادله از قران که قران بله، از, از روایت که من گفتم بازوشی آدم. میخوای از لغت را دخالت کنم؟ شیخ ادله دا خلاف نیست. اگه میخوای کلم نادله خلاف بیارم. چون اگر چون شیخ نیستند، نگو کنید شیخ در زمین استدیل، شیخ در زمین استدیل لالهاشون، استدیل بین کردن که خداوند ادوات تاریخی او بود که مستوا علی العاشق. نگو کنید آیه رو کامل بخون و هو لذی خلق السماوات و الأرض في ستة أيام وكان عرضه على الماء خداوند آسمان و زمین رو خلق کرد از آب که از خودی او بود بعد خداوند مستوی بر عرش سوال اینجا مطرح میشه من سوالی که از شما و شیخ دارم که شیخ گفت که نظر خلاف مشترمه بر این که خداوند بعد از آخرینش متصلد و چیره شده بر آخرینش این قسمت سوال الان در چیره شدن بعد از خلقت آخرینش خب سوال اینجا مطرح میشه قبل از اینکه به لخره حدیث واضحه است الله المقادير الخلاء قبل ان خلق السماوات والارض 50000 و قال عرش الماء ادل ديود كان الله لن شيء يغير وكان عرش على الماء عرش قبل از هاو دین بوده آيا خداوند قبل از آفرینش تسلط بر عرش داشته نداشت این کلمه ذش نیست که ما ما بگیم خداوند آفرینش از بعد متسلل شد حالا عرش شد شده است یعنی این عاش آن متسالد شد برایش که قبل از آثار خلقت آفرینش رو زمین اینی خداوند چیر نبود متسالد نبود بر سطح ازش نیست که مثلا ما بگیم است و سوم علی العرش به معنای چیر شدن متسالدی ازش نیست که مثلا ما بگیم قبل این چی شد؟ قبل از سلطه و رو کی می‌جربون آسمان و زمین کی متصللت بود کی تدبیر می‌کرد قبل از این چی بود پس اگر ثم که اینجا شیخ میگن من دلیل خودش رو به خودش برمیگردونه شیخ کی میگه اینجا ثم عدد تراخی هست پس قبل از اون کجا بود خدا و چیکار می‌کرده تدبیر آسمان و زمین دست تدبیر عرش دست کی بود تدبیر کرسی دست کی بود تدبیر اینو دست کی بود حالا بحث اینه که خب این انحرافات اعتقادیه که یعنی خود به وقتی که شما این چیزین کردید با تصدیق شباهات هم برید سوال کردن شما که خب هر که ایشون نقل قولهایی از حمله براخره امام شافعی ایمان در نفی علم کلام و فلان اینا اینا تو جهان اسلام پر بوده همه این مذهبی مذهبی دیگر رو میکوبیده اگه این رو میار قرار بدین خیلی هنفی ها ها رو میکوبیدن شافعی‌ها ها از این هنفی ها را مالکی اون چیز فقها هم حرفا فقه, ها و, فقه ها و محدثین هم همه همدیگه رو میکوبن هم فقها هم محدثین هم محدثین فقها این در جهان اسلام نداریم علمی یا فرقه ای که علمی و فرقه دیگر رو نکوبه لغویون به باقی به اون فرقاچی میگفتن این جهان اسلام یستمی اون القول بسط به هم نداشتن که همه محترم باشن همه ارزش علمی داشته باشن و ادبیات به این فوندی نداشته باشن علی هم دیگر همه تو کتابخانه خوشو موجود باشه اینطور اون تسریفانه نبوده آرزو داریم ما که در این دوره جدیدی که فرهنگ اسلام داره احیا میشه دیگه اونطوری نباشیم بدو بیرای فرقه ها و علوم نسبت به هم دیگر نباشه الهی که اینطوری بشه اه... یستمیون القول باشه یکی بعد از میشه که اشائره و اونا مبناشون چی بوده بود مبناشون بگیم. که اهرش و اونا رو تأویل میکردن اشائره و معتظله خدا را فقط با برهان حدوث اثبات می کردن برهان حدوث عالم. برهان حدوث عالم اینه کل و جسمان متغیر خب حالا بعد می گفتن اشائره و می گفتن اگه خدا هم جسمانی باشه و کل و جسمان متغیر خدا هم میشه متغیر و کل و متغیرن حادث و کل حادثن یحتاج الى مهدث و خود خدا هم نیاز به مهدثی داره و اینطوری تنها دلیلی که برای اثبات وجود خدا داریم از دست ما در میره و میگفتن که این معاقلانه نیست که ما روی شاخی استادیم بن بله همو شاخو بگیریم خیلی منطقی میگفتن و حرفشون به حنابل هم همین بود به سلفی ها میگفتن خب شما یه دلیل دیگه به ما بدید بهتر از این اون وقت این شاخو میگویند ما پامو روی شاخ دیگه بذاریم اون هم این دلیل نداشتن سلفی که بگن که بله حالا خدا را با این دلیل اثبات بکن. و میموند دل عدلی فلاسفه فلاسفه پنشیش تا دلیل داشتن به اثبات خدا مند عدلی فلاسفه خدای ازلی جهان ازلی را اثبات میکرد یعنی خدا را که اثبات میکرد جهان را هم ازلی میکرد اشاره و معتدلی میگفتن که جهان ازلی کفره چون جهان اگر اشاره و معتدلی حرف میزادن دردشون این بود اگه فشار می آوردن رو اینجا که اینا رو باید تعویل کرد، جد الله خلانه طلعت فوق ادی همه را باید تعویل کرد، اشو باید تعویل کرد، دردشون از اینجا بود. ما به ذهن ما میاد این خیلی منطقیه. ولی شما منطقیه که با کابالاش به چی بکنیم؟ همین میگفتم ما روشاخی، ما مولانا ترابین نیستیم، روشاخ هستیم، بونهامون شاخ رو بگیریم. این حرفشون بود، این دردشون بود، این علت اصرارشون بود. ما دنبال این نیستیم که فهد سهم بکنیم چه شده که اون فشارش میاد آخره؟ فقط حمله می می‌آره ارسطو آستوناستون از از کار. اوه او اونها با ارستو دشمن بودن. بلا ارستو که شش هفته دلیل بر رسبت وجود خدا می آوردون ارسطوییان ابن سینا و اونا اینا می گفتن ما مال ارسطوییان نمی‌خوایم معتزله با اشاره می‌گفتن. خدای ازلی خدایی نیست خدای قرآن باشه. اشارات و ذهبشون این بود. حالا بنده باز باز ها از این حرف اشعره و معتزله بنده باز تقابلیشینی می‌کنم. با اون قاطعیت نمیگم یعنی چرا میگم که ما دلیل هایی برای اثبات روزید تو خود قرآن داریم لازم نیست به برهان حدوث بچستیم لازم بنده به عنوان اشعری نیستم هم و بازم هم یه مقدار به سلق نزدیکتر از اشعره معتداره یک گام به سلق نزدیکتر و از این گذشته حالا این او چیزی که درد اشعره این بود این بود این. اما از این گذشته اونها قرائم داشتن تو این نصوص بله تو این نصوص قرینه ها زیاد بود بیسی تا از همین آیاتی که بحت عرشه من قرینه جمع کردم این بحث سمه هم که کردم چیزی نبود که جواب بخواد چیزی نبود که جواب بخواد چون من چه گفتم به اینکه که رد حرف من نبود من چه گفتم؟ من گفتم سمه برای ترافیه تراحی یا زمانیه یا مکانیه یا رتبعیه کله صرف تلمه سمه کله صرف تلمه استواب بعد از خلقت تا فرحیت روخ حالا این چه دلالتی توشه دلالت. دلالتی قرینه هست قرینه قدییت نمی بخشه قدییت استر... قدییت نیست بس. بله بله قدییت بله. نیست هیچ قرینه قدییت نمی بخشه جنبالی ایشون که هیچ قرینه ایتا به هر چیز نکرف کن میان لغت استوا علاه. لذا قرآن سر قرآن قرآن که تلویزیون استوا علاه ظهوری. استوا علاه ظهوری بلی اهم ظهوری که من گفتم که استوا میگن که وقتی با علاه متعددی شد حتما حاکییه حاکییه که من گفتم متفقند همین که حاکییه حالا میشه مجازی ولی استوا با علاه این که اصلاً محققتش تو غیرنشستنی. حقیقتش تو غیر نشسته از مجاز هست بر اینکه خدا وقت از مجاز می‌خوام یا من که تمام شد شما در لغت هست. وقتی که تمام شد دیگه شما بفهمید. بعد وقتی تمام و یک نکته دیگه این که، یه نقطه باز این نگا بکنید خداوند متعال خواسته باز زبان ها خودش عالم غیب را توصیف بکنه. یه باغستان غیب را میخواست توصیف بکنید تو ما ندیدیم نه, نه کلمه‌ای برای اونجا درست کردیم هیچ کلمه برای اونجا نداریم یه باغیه که ما شما بخواد برای کسی توصیف بکنید که هیچ اسمی برای شما تو چطور توصیف میکنی یا خداوند باید کلمات جدید درست می‌کرد یه فرهنگ لغتی همراه جبرئیل باز میفرستد همراه قرآن ای یک را راه دوم اینه که همین مجاز و کنایه و استاره اینا رو کار ببره که زبان عرب پره اصلوب زبان عرب اینه خوصن تو بحث عرف اینا که میگه خیلی فروان آخرین نکته باز بنده میگه یه قرینه باشه اونجا که میگه زلعرش المجید فعال لما یورید همه جا بعض از عرش بعد, بعد از عرش بعد از عرش بحث قدرت خداست یا علم خداست یا تدبیر و درایت خداست میگه چه؟ زلعرش المجید فعال لما یورید حالا بیا ای که تعال المایوریت همون عبارت اوخرا از عرش مجیده هست عبارت از اونه حالا باز این ای یه قرینه باز یه قرینه دیگه بیا با آغاز سوره بسما بس ازات الغروج و یوم الموعود خدایی که برج های آسمان به دست آخر سوره و اول سوره همیشه تطبیق هم هستند خداوند ذوالعرش مجید و فعال لما یرید است به عاصب اخدود داره میگه عاصب اخدود داره میگه داره میگه که من قدرت داشتم که اصحاب اخدود را نابود بکنم ذوالعرش ال... چون که چیز به دست منه برج های آسمان به دست منه برج های آسمان ابرتخراش چیه فعال و لما زلعرش و فعال لما یرید برای لذین که تو روی کذبان که هم عصب بله ولی که از دوون اصفهان به حدیث چی نداشتم نه همون سموختار آونه چی چون ما اول باید باشیم که بدانیم که کدیم فوق‌بر انتظار باشیم که آن‌ها بتوانند بدهیم و بعدی شرط‌هایی برای شما هست محدوده اصلاً نه درباره‌ی کاری که گفتن حملی ها کوسفیزه سر حملی ها قرب نیست امام اسم محمد بن وردم یا حملی نه مالک آوردم شافیو بود در اسم محمد محمد بن حمبل مالک عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وزاد ربيعه بدل الجمله الاخيره من ومن, ومن الله ورسوله وعلى رسول على بالاصيه امام شافعی رحمه الله می القول في السنة التي أنا عليها رأيت أهل الحديث عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر أشياء قال وأن الله فوق عرشه في سمائه يقربه من عباده كيف شاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء امام مالك اصباط العلوب اصباط السماء امام بقولهم همسو ده صحيحش ده الكتابة الوحيد بياد باب وكان عرفه على الماء وهو رب العرش العظيم قال ابو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن وقال مجاهد استوى على على العرش امام بطري هامشين كتابة وشيد ميذيات تعرجوا الملائكة وروحوا اليه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال ابو حمزة عن ابن عباس بلغ أبا ذاك مبعث النبي فقال اخي لي هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه خبر من السماء وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطير يقال بالمعارض الملائكة تتأول إلى الله إما باب البثي عكبري ذا كتابه باب النبيات وأجوع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سباواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبه ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية وهم قوم زاغت قلوبهم واستحوتهم الشياطين فمرقوا من الدين وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. وقال إنه في الأرض كما هو في السماء وهو بذاتي حال في جميع الأشياء وقد أكذبهم القرآن والسنة وقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين يا جماع إن جاءناك من كل أبن الله باته بحث أمام أحمد بن حنب النيس وبحث نيس بحث مذهب علماء الصحابة والتابعين والتابع التابعين حسناً إن ربش قفتي ابن عباس مشهور در بحث استواكي منه فعلا وارتفعه نغو چه چیز باعث میشه چه چیز باعث شده که خلف به گمراهی کشونده بشه خلف بیاد اظهار نظر درباره خدا بگه که حقیقت علم خلف حقیقت کلام اظهار نظر درباره خداوند یعنی که نباید نباید تصور داشته باشیم یه چیزی از پای رفته بالا بخاطر همین این استوا رو باید کلین براش پیدا بکنیم که قرائن عام غیر تری غیر قطعی باید این نص صریح که دلالت عربی با خود قرآنم گواه برش هد باید تأویل بشه با اون قرمه از خب شما قرینه محکم خود آیه قرآن در تستوی على ظهوری رها کردید که محکم شد با اون غیر قفعیات چرا چه چیز علت شده علتش در انجاز علتش در قدر مشترک، قدر مشترک مشکل اینجاست قدر مشترک انسان میشنبه خدا میشنوه آیا شنیدن مثل هم دیگه انسان نفس داره خدا هم نفس داره آیا نفس ما مثل نفس خداست خدا, خدا داره مهم زاد داره ما هم داریم مثل هم دیگه خیر تعلمات في نفسك نفسی ولا اعلمات في نفسك كل نفس دقیق الموت خدا نفس داره انسان هم نفس داره حالا خدا گفت به نفس ضائقه الموت خدا هم میمیره خیر دلالت الموت العرب بر این دلالت میده که خیر خدا نمیره چرا خدا نمیره شول خداوند نفسش مثل نفوس دیگر نیست چون ذاتش و اسماء صفاتش مثل دیگر موجودات نیست بلکه تبر ربكم على نفسها الرحمه وصنعتك نفسی، ولحذركم الله نفسی خدا نفس داره انسان هم نفس داره ولی اون نفس نفس خدا از جمله نفوس خارجه خداوند تو قابل تصور نیست زياده ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بطیره فجعلناه انسان سميعا بطیره خدا هو سميعا بطیره ان الله كان سميعا بصيرا خضره من شنو خو خب ارسطو لازمه اثبات الصفات الي که جس باشه لازمه اش ما هم خندي زياده مش كل گوي همش كل ای که من جواب دادم اخو گفتم که سفاد داره این که ب اخو من خیلی ارزشمنده خب به به من لا قلب دیگه زیر میخواد استفاده بکنه من گفتم که سفاد داره منت کیفیت جسمی نداره من گفتم که ما کیفیت خدا رو نباید تصور بکنیم شما اگر حرفی داره الا اینجا باید بیای دلیل بیاره خدا چرا بالا نیست چرا بالا نیست برای نیست چون جس نیست من گفتم جس نیست شما گفتید که نه این جساتی اسکوپ کنی نمیدونیم الان گفتید دوباره که جس نیست مگر اینکه یه بار میگید که نمیدونم یه بار میگید نیست م. یه حرفی بیست بالاخره اوه خدا جسمی نیست شما جسمیش نگیر بالا هر کی براش میگی مشکلی نیست شما اینو محل نظام اینو حیفیات جسمی را با خدا نسبان میدی یا نه اینو روشن بکن بعد حمله بکن من خیلی خوشحالم که که اون ای که من این حدیل برای جیورد اگه خدا مثل انسان نیست خدا نیست نفس نومی سما نیست خدا من این نفستارم میارم که خدا مثل انسان نیست لیسه کمیت لیشهی و هوا سمیع البقی انسان میبینه میشنبه انسان بالا میره پای میاد ولی خدا مثل انسان نیست خدا مثل انسان نیست خدا یا چیزی فراتر از تصور ما ما نمیتونیم خدا را تصور بکنیم چون نه خدا را دیدیم نه مثل خدا را دیدیم اون چیزی که هست اخباری از خدا به چه دلیل به چه ای به چه دلیلی از قرآن و سنت من بیام بگم خدا بالای عرش نیست كجا نفسري خطو ميگيد غير قرطنه نصوصي كنيات تعاوج وَغَيْرَ وغير از نصوص امنتم من في السماء همه اينها نصوص لایا در علو خدا داره معراج رسول الله عليه الصلاه چرا باطنها هفتون رفتن چرا چرا الله عليه گفت لو من چرا نور چرا بحث که بحث که سلاف وقتی که من کینه‌ای که به قرآن نداشتن نه امام شافعی نه احمد بن حنبل نه مالک و نه غیر دیگه وقتی احتراز امام شافعی می‌خواد که بیاد درباره قرآن دیگه درباره استوای خدا بگه امام شافعی که میگن حجت بعد از القربا شما از قرن اول نپذیرفتید من از عباس نپذیرفتید مجاهد و تابوس نپذیرفتید ابو العالی از قرن اول نپذیرفتید خب لغویان میگن که امام شافعی که حجته امام شافعی میگه این نثر نمیگه که خداوند با مستوی بر شما بیاید با منطق با دلیل با نقد بیاد بگید بله این قرینه قطعی تو قرینه نایی شما هیچ کده قطعی نیست یک قرینه قطعی بیاری بگید الان به چی در پاسخ میده ایشان؟ به چی در پاسخ میده؟ من اعتراض به شما وارد کردم من که پاسخ ندادم من دارم اعتراض به شما وارد می یعنی حرفای منه؟ کی قسمت هر طای این حرفای منه سبحان و منم میگم دعوا نکرده یعنی حرف امام صادقیه درست خدا مصیب العرش خطام جلسه و سلام علیکم مثلا اینجاست که تمام شد دیگه تمام درست تمام ممشه ممشه. ما هر درسته من میگم که پس چیزی نداشتی به اون قوت که بخوای خلفو تبیح بکنی و به اینجور بکنی ما اونا هم میگن من میگیم که شما جسمیت قائل نشو که ما هر چی سعی کردیم از زبان شفاف نشه جسمیت در آخر هستین اگه جسفیه نیست اون وقت دیگه هر چی تو تفسیر جا داره مقبول اونا هست مشکلی نداره چه مشکلی هست که استیلای بدون کیفیت جسمانی می خدا داره بدون کیفیت هیچ مفسری هم تو تفاکیر هست مشکلی هست. مشکل من به هزار بار گفتم من چرا م... نمیدارم چرا می میکنی شما از این بله کیفیت جسمی برای خدا صفات جسمی در یاد، در استیلاف، در از در حل قائل هست یعنی اینو بیا بگو تو محل نذاب بشه من گفتم و لا تقف ما ليس لکبهی علم نشوم دلیل از قرآن ووردی، نه از سنت خدا جسات یا نیست من گفتم در بری قدابان و ان تقولو الله. قل انما حفظ من الفواحش ما ظهر منها و ما بطل بعد اخرت کی جان تقول علی الله ما تعلمون شعار کلیوی شعار کلی کودی قتل من دارم میگم که شما بگو جسمیت صفات جس ولی دلسی هم دارم میگم میبینم متوجه نی دوست من میگم خدا نگفته پیغمبر نگفته دلیل و ارائه به خدا جسم هست یعنی من میگم نگفته خب من نمیدونم ولا تعلمون لک بی علم هیچ کس نمیدونه. البته خمالی ترکه گفتم اگه دلیل دارن بفرمایید. احسان. خب باز حرف ما بازم همینه که ما میگیم در رابطه با خدا، که در رابطه با خدا ما ماهیتش نمیفهمیم چیه؟ عالم غیب ما ماهیتش اصلاً نمیفهمیم چیه. نامه این رو دش... رودوش ای ما دارن ثبت میکنن. ما میفهمیم دارن می نمیسن. یعنی داری می داری. ما کار فلان داره ما کیفیتش نمیفهمیم. روغت تعرف به ما میگه که یعنی ثبت ثبت سطح. یکی از ابزار ثبت کردن نوشتن ثبت مش چه بسا چه بسا این ثبت کردن با قلم اعمال و آداب باشه در لوح شخصیت ما در لوح روح ما چه بسا لغت عرب جا داره حالا بحث امینه که ما بازم را روی نداریم. مو که شما قلم و کاغذ و اینای جسمی رو قائل هستی یا نه ما هم میگیم کل حرف ما کل رو ما هم میگیم که عالم غیب رو اصلاً نمیتونیم تصور بکشیم ماهیتش بفهمیم چیه پس خوب شد یه <تصفيق> <تصفيق> نقطه نتیجه گرفتیم یه نقطه به نتیجه رسیدیم اون این که اون این که اون چیزی اون دعیه این که چون من با شخصلاح بحث کردم شخصلاح کسی که پایاننامه دکتراش تجلدیش با این تطوری در این زمینه هست و دو ماه هم تو این مدت تحقیق کرده دو ماه از اقویت ترم قبل قرار بود این مناظر برگزار بشه بست و لیذا بنده خیلی خوشحال شدم که اون قسمت کرار قرار بود که مدعی فرقه ناجیه هست مبتنی مدعی تبیع فرقه های دیگه هست مبت چیز حد دلیلاش اینه خیلی جای خوشالیه که جهان اسلام پس پس, پس, پس چیز نه من می خوام جلسه گیرا بگیرم نه من تفکر گفتم تفکری که میاد اشعارا رو تبیع میکنه دلیلاش نه خیر نه من گفتم من گفتم ایشان بلاخره نهایت زورشو زده بلاخره ایشان که تغییر ایشان که فرقینوزی مدعیش نیست ایشان تبدیل هم نمی کنه اشاره رو تبدیل نمی کنه نمی اون گروه اون, اون چیزی که تفتکوری که مدعی فرقینوزی هست تبدیل اشار خیلی جای خوشحالیه اگر من هم یه دارم تند صحبت میکنم ولی خوشحالی را رو بارم به زبان تند بیم که پس من خوشحالی رو دارم بارم. که دوایی پس نیست این فرقی بقی باقی, باقی خالده فرقی نوژی هستن این شعار بوده این مبتده و از راه قرآن و سنت اشاره به کج رفتن شعار بوده کسی نرسه تشکیه من یک یک سوالی فقط بحث برهان حدوث رو کردم شیخ جواب بده در بحث برهان حدوث از کلام برهان حدوث گفتن که هر بحث کلام بحث داره به استوار هر متغیری هر چیزی که متغیر در حادث حیل تغیری بیاد لازمش حدوث دیگری هست یعنی خدا صفتش قدیمه نزد اهل کلام حالا این قدیم و خدمت نباید یه چیز حادثی در صفاتش بیاد یعنی باید استواء دلش بیاد نباید اش تنیدن نباید تلام. و دیگه صفات دلش بیاد آیا شیخ متونی برهان حدوث هست یا نیست؟ شما سوال که حادثه است نه من سوال بکفتم این متبندی برآن من میخوام رد بدم من میخوام گفتم که شما کلام منطق خالی تو نیست گفتم بفرما از کلام منطق شما بینید تا, تا ببینیم که ما خالی من هست یا نیست شما وکیل مدافع برآن حدوث هستید نیستید من گفتم که الان تو قرآن بنده تو سوی سب به تا هشتا تا عدله فلسفی اثبات وجود خدا را برآن شما نیست برآن دارم میگم که لذا بگه اصرار رو برهان هم ندارم بنده اصرار نداری بشتو اصرار نداری بله نداری بس دو تا دارم که شما به وحبی به جامعه دارم قبل از هم نشده بگونم دوستان رو تا دارم پس تو صاحبی دیگه نوشیدنی داره سلام. که آیا در یعنی كل شيء شيء آخرش شيء شيء بله بحث شيء خدا شيء هست ولی نه مثل اشیاء خدا نه مثل چیزها شيء اكبر شهاده ان القران شيء شيء شيء بولنت صابت ایو شيء خدا, خدا, خدا شيء ولی آنه دلیلی داریم که خدا مثل اشیاء نیست بله لیفت که مثل شیئی هیچ چیزی مثل خدا نیست خدا چیز هست ولی نه مثل چیزهای مثل ما مثل حیوانات مثل مخلوقات دیگه خدا چیز هست ولی از جمله چیزها خارجه چرا خارجه؟ چون خداون گفت الله خالق و کلشه خداون آفریننده همه چیزها هست چون آفریننده هست پس آفریننده شده ها اونایی که آفرینده شده دلیل اتعمم نداریم خدا را شامل نمیشه چرا شامل نمیشه؟ چون لغت عربی میگه، چون لغت عربی میگه تدمیر کل شیئن با امر همه چیز را نابود کرده برگو خدا بر بحث قومش بعد فاکبرحولا یورا لا مساکینهم ولی که مساکین سر جوش بود. پس کل داد شمول ندارد یه چیزهای استرسنده خدا چیزها کلی مثل چیزهای دیگه. شواهد زیاده مثلا خدا میکنه کل نفس این دقیقه میاد خدا نفسه وحذارکم الله نفسه. آیا خدا هم می نه ما میگیم خدا نفس هست بلی نمیت نفس ما لیسه کم مثل هیشهی مثل ماها نیست بلی که و میبیند ناشت اصلاحیت <تصفح> شده مطبع که در این که استغاق که معنی پاکی منده در هفتی از قرآن رسانس این گفتم خب قرائنی که ذکر بوش تکرار میکنم قرائت ادله صریحه ادله ادله صریح ادله صریح تو تفسیری دادن تفسیر با قران با قرینه هست تفسیر دلی صریح نیست اونجا هرچند این ادله اگه یعنی کثیری باشه با قاتل میتونه بگیره من بازم بازم ادارو میارم پایینتر ولی اصلا خیلی زیاده که اینا مجاز مجازه این می نگفتم مجازه حالا حالا جواب میدم دو تانو یکی دو تانو تیه تا دیگه میگم یکی اینکه که اگر گفتم آخه من گفتم آقلایی ای که اینجا نشکتنم شنیدن یه فرصد پنج یه فرصد پنج دقیقی میخوام از استفاده بکنم یکی من بحث هم زبط شده برگردونند بقیه بودی الان <تصفح> <تصفح> من استفاده دیگه میخوام بکنم اون اینه که آیا ایشان که بله از اجماع صحابه میمونه تا یا صحابه اجماع داشتن بر اینکه که خدا ارش رو ارش هست فلان اینطوری تو تو قرآن که ادله مساوی بود خرای اینا داشتن او طرف البته نبود تا ای یکی استواب با علا گفت اگه امات حقیقت در سلانه که من جواب دارم دیگه هی میگفت تو لغت لغت, لغت و اینا ولی خب در این فلاتمو کرین کرینه یکی بود بنده چندین کرینه تو اونجا ذکر کردم و حالا خیلی واسه ده پایین میگیریم هر دو تا جا داره هر دونه در جا داره من تا منهای تصور جسمیت دیگه میمونه که مگر اینکه ایشان اجماع صحابه بیاره سند داشته باشه از اجماع صحابه اون وقت میشه بر جسمیت مثلا یا هم از این که تعویل کردم که بازم گفتم تعویل نکنم تعویل بکنم یا نکنم جنگ, نتیجه جنگ, جنگ. این نتیزه جنگ نمیشه جنگ نیست او کیفیت مجهول میگه اینم میگه قدرت چرا همه جنگ پا کردن شافی و نمیدونم مالک و نمیدونم ابو حنیفه چرا جنگ پا کردم جنگ علتش این بود حکومت ها کردن حکومت ها خواستن یه عده خواستن سلف مدافعشون باشن مشرویت بخشون در بین مردم باشن حاکم گفته من حکومت سلفی یکی گفته من حکومت اشعری تا علمای اشعری حکومت ها اینو نگه داشتن و الا دعوا در اون حد اینو... يعني... نیست که علما یعنی مداهنه کردن یعنی عمی مداهنه حکام کردن حالا هر تجار شما میکنیم یعنی این واقعا دینصافی نیست در برای عمی اعلام امام شافعی و مالک و اینا که مداهر حکام بودند و ترکان الی بین ما دلیل بر دست قمند شیخ اینجا ائمه محترمی هست ائمه مثل شافعی و مالک ما بهشون بگید به خاطر حکام آمدن این رو زدن شیخ این صفی هیچ کسی نمیداره کدوم جم میپیدیده ای حالت این توحین این توحین به این دلیل مال هر ترک جا داره توحین داری شیخ الا توحین شما دادن این مداهله کردن دلیل ها, ها, ایشان عادد. ایشان عادد. ها هر دو ترک توحین به این مرد برای حکام اومدن این حرف رو دادن عادتش حمله هست کشان دلیل باشه نباشه چه دلیلی هست شما حمله کردی به عیمه؟ حمله نکردم من گفتم حکومت های حکومت ها سبب شده که این حرف ها را بزنن بنده از, اص... از ساتی دو خدماله وقت هم هم شده این بید از خلصا شیخ محمد سین محمدی و شیخ محجور که سبب دلگرمی ما یعنی ما طلبه ها با هم بلاخره ما این طلبه ها بحث میکنیم و رعایت و اینجورتیزه هم مناقشات رو نمیکنیم به جسارت و اینجور بس بس بس بس دماؤ... بس چی؟ چی؟ جد... بله من رویم که هر ثمان این هست که دلیل به اون قاطعیت نیست که اشائره بین اشاره و سلطیه فاصلهی به این امیقی باشه این از دلیل ناشی نمیشه من هم تو تفاصیل که بگم خدمت چونها تفسیر آلوفی نظر سلسی ها را دفاع میکنم مال اشاعره و صوفی ها هم دفاع میکنم تو این مسئله المناره هم همینطور شوکانی همینطور یعنی قوت دلیل اون هد نیست یه طرف دیگه بتونه بگیم مقتدر اصلا چنین قوت دلیلی نبود من هم هدفم همین بود که در امشب همین مشخص بشه که دلیل مقتدر بودن اشعری ها پیدا... مشخص بشه که چیه که پیدا نشد یه دلیلی نبود <تصفيق> لذا این این فاصله رو باید از بین ببریم همه علمای اسلام نگیم خارج از فرقه ناجیه نتیجه عملی این بحث خودمان نگیم فرقه نوجیه مثلا فرقه هست گفتن فرقه نوجیه کل علمای اسلام فرقه نوجیه هستند سلفی و اشعری و هر چی هستن علمای اسلام فرقه نوجیه هستند همه اینا سلفی کیه هر کسی پیرو حدیث ضعیف بی سو فرض می‌کنه همه سلفی ان اشعری و نمی‌دونم اینا همه جو سلفی ان و این مرضهای بدلیل دیگه اگه ای تو این خیانت به جامعه اسلام و بالاخره تاقوزهای بی دلیل منظور جوهری ها خیان اول کار شروع کردن سلفی های تنرو غیر اصولی الان هم ختمش خیانت هم کردن بس مخاطب اینجا شیخ دو مناظره که مشخصه بده نظر مناظره به من و اینو ایشونه خطابش kia که مده فرقه ناجیه هست خیانت کرده به امت اسلام خطاب kia شما ببخشید شما چه خدا من منظور منو شیخ سلام ما هر دو هم سن و سال هستیم هر دو هم طلبه ایم هر چی هم به هم دیگیم هم جا داره به هم دیگیم دوست هستیم رفیق هستیم ما بس نه ما که شخص رو دیگه چی واسه ما ما از که در جامعه اسلام پتنی که در جامعه اسلامی درست امروز که یکی امروز این مناظره چی چی چیزی به خاطر ده بود که شکست خودم و فلان دو فرقه ناجیب شکست و فلان میشه اینها فتنه ای که تو جامعه و در چیز ما این فتنه نیست وجود نداره من حرتم این هست منظورم اینه حالا گده بیت خرابی بقرارم از این آب که اه... بلاخره مؤمن از من مخلص از من و از من محبوب تر و دوست تر از من همه کفیت رو که حتی بگیدیشون هست من اوضو می‌خوام. اگه واقعا جمعه معنی دیگه ای داشته پسر تا برد شما برد شما برد شما مرد شما یا روشن شد که دنوش افتراب معاملی اقترار این و دنوش افتراب و بعد گفتن دنوش افتراب که اجتهاد در از این ادراوی ندرد نجمه بس برموکتن و بعد سوال افتران نمیده یعنی که که هدف از این یعنی هدف اشاعره یا هر دیگه متولی این اجتهاد کردن این اصول حد هدف این چه بوده اون هدف رو ظاهرا شما اینطور بیان کردید که برای تصحیح خدا و این گروه چون این هدف این بود که بتونن دور خدا درباره خدا ما جزات نکنه ولا تفولایات کبیرات ولا تفولایات درباره خدا جزات نکنه تثبیر خدا هم سبحان دیگه پاک منظر خدا ولی خب اینجا ولی درباره خدا بدون دلیل تضاوت نکنیم این که ازتباه عرم عصران خب برای تثبیر خود ازتباریم که خدا رو از اختلاط با مخلوقات از همه جا بودن تثبیر میشه این با نتیجه بود اما برای آخر به اجازه اندرور چه بنده دیگه هیچ حرفی ندارم و از اینکه تحمل کردید بحث در شکسته ما را ادبیات ضعیف و ناقد خیلی تشکر داریم از ما علال خصوص از رو بزرگوارم و خصوص استاد عزیزم شیخ محمد حسین محمدی و مش مشهور که رفتن با بیش سفیدشون این سبب تشمیق ما هست خیلی خداوند ایشون عزت رسون بدهند درود سلام و الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات واقسم بحمد الله جميعا ولا تفرطوا تسير فرمانده که ما یک امت واحدی باشیم وإن كان ذو اثوب شيء كذبوا إلى الله ورسوله المنازعه تقول لله ورسوله شلون برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الالهيه هذا بدلالة اللغات بدلاله اللغه وفهم ائمه امم الصحابه وتابعي مساك اتابعين از مالك والشافعي وابو حنيفه وابوزعي وسفيان الثوري وابن معين وغيرها اثران ائمه اسمهم كنم خلي اختلاف در قضیه استقای خدا را به نظمت شموردن و این تفکر و این اظهار و نظر به خداوند را روز فقاحش دونستن جز بدعتها دونستن جز اج... اجتهادات درباره خدا دونستن که درست نیست این اجتهادها، این بدعتها در دین با توسط با استدلال به قوانین فلسفه یونان و اومدن دادن و ما هم وظیفه هست همونطور که فرموگه دستور و و الذین تبعهم به احسان ما به از اونها یاد بکنیم و پیروه و رهره و اونها باشیم چه می شود اگر ما مثل شافعی بفهمیم الرحمن علی علالعرش استوا استوا کما یلیق وجد چه می شود اگر اشعار نمی اومدن مقالفت نمی کردن با شافعی با مالک مگر ابا حتن اشعاری که اومد؟ هر نسبوم اومد مگر واسل ابن عطا که این مرکن دو چرا با اوزاعی چرا با ابو العالی و ابن عباس چرا با دیگر سلف در این مفاهیم لغمی اختلاف کردن امه اینو جائز ندونستن و درست هم نیست که ما مشکل بتازیم و بتراشیم و تفرق بکنیم یک معانی جدیدی و مجاز رو نمیدنم با هزار قرینه و غیر این نصوص صریح و واضح بخوام تعبیلش بکنیم بخوام نیست. نیازی نیست کافی بر ما حجت اون ائمه، اون دله هاشون که اینجا یاد شد دله هایی که گفته شد و دفاع هایی که ازشون کردید این خطاب بحث من هست هر چند صحبت ادامه داره بحث ها بیشتر از اینه ماها در بحث از مستقات این بحث ها رو کردیم و بازم این دنسانی که میان در بحث عقیده سلب این بحث ها را ما بر اکس خلاف اگر شیخ درن بقت بدن دو دقیقه اگر, اگر در پوین اگر بقت بهم بدن ما قبلا در بحث کنفرانس تاکیر بحث کردیم همونطور که ابن رحمه الله میگوید در این مسائل اجتهادی نه کسی رو تبدیع میخونی ابن سیمیر رحمه الله میگوید وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمه محمد وآخر فالتكفير وقت الضوء يختلف بحسب اختلاف حال الشخصي فليس كل مخطئ ولا مفتدع ولا جاهل ولا ظالم يكون كافرا بل ولا فاسقة بل ولا عاصية لا سيما في مسئلة مثل القرآن لا سأل كمشي لك ميشي لك تفسيق مش لك تتبديع ميش بعينيش مجال بعد ذلك إقامة حجات وبيون محجات أما إن ربش دار أهل كلام نيس أهل كلام کتانی که ظاهر قرآن را بگنن بگن بيجن خداوند مستلید بلعرش را تکفیر میکنن نسل کلام دسوقی با کتابش بعینش اووردن دسوقی در حاشیتش بر ام است. اصول الكفر سته شیشتا کفره وعدد خمسه پنشتاش نجا در حاشیه میبینید ذکر دلیه سادسا التمسک في اصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة تمسک به ظاهر قرآن من غير عرضها على البراهين العقلية بدون أرزكاذن ببراهين عقلية مثل حدوث إنام والقواعده الشرعية إلى أن قال والتمسك في أسس العقاد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل وهو أصل ظلالة الحشوية فقال بالتشبيه والتجسيم والجهة علما بالظاهر عملا بالظاهر قوله تعالى على العرش الزواء من ثم في السماء خلاف قائل بالتحريف إنما الناس قائل به تکفیر سلفن اونهایی که میگن خداوند مستقیب العرشه خلف تکفیر میکنه نه سلف قول سلف امنت امنی گفتم کنفرانس تکفیرم گفتیم هیچ از سلفه و چنهایی فیل نمیزد نه تکفیر میکنن نه تبدیع و نه حکم شخصی میدن این را قبول ندارن بلکه این چین چیزی که هست تضلیل بلك التكفير كي يجل نسة تاريحة نسة بوضحة تسوقيها الكتابش كتاب أم البراهي تلوتون وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى محمد <تصفيق> خیلی این شایلو که حالین این در بحره یک در این همون که گفته شد نتا قرآن تو ایتظار رو شد تو درسار رو شد رو رو یاد بگیرم یاد زمینی رو برسی بگیرم تحت که تک نو هر دو دیگر رو با خود رو بگیرم برسی طرح شایدان نباشید دنید از درد رو می‌خوام اینکه صدای قرآن احماض قرار نزدیک بونه. مجددا تک از طرف خیر و السلام و رحمت الله. شیخ عدنان امینی